سلام، شما اپیزود 17 از پادکست سالف رو میشنوید هر قسمت از این پادکست روایتی از یک نمای است در این قسمت نمایشنامه چلاغ آینیشمان نوشته مارتین مکدونا رو براتون میخونم. از مکدونا و سابقش قبلا در اپیزود هشت یعنی مراسم قطع دست در اسپوکن براتون تعریف کردم. اما خیلی خلاصه بخوام بگم مارتین مکدونا نمایشنام نویس، فیلم نویس و کارگردان انگلیسی ایرلندیه که سال 1970 در لندن از پدر و مادری اصالتا ایرلندی متولد شد. اگر اهل احل نمایش خوندن باشید. مرد بالشی فکر کنم معروف ترین نمایشنامه مکدونا در ایرانه که چند بارم توسط گروه های خیلی معروفی اجرا شده یک نمایشنامه دیگه ای مکدونا که اون هم ترجمه شده در ایران همون مراسم قطع دست در اسپوکنه که ما توی اپیزود هشتم اون رو روایت کردیم اما اگر کلا اهل نمایشنامه و تاعتر دیدن نیستید مکدونا در سینما هم آدم شناخته شده ای به احتمال زیاد اسم سبیلبرگ بیرون از ابینگ میزوری که ساختای همین مکدوناست به خورده چون اون موقع که فیلم منتشر شد خیلی جایزه گرفت و جز فیلم‌های فیلم های شاخص سال 2017 بود اما به نظر من اگر میخواید سینمایی مکدونا رو بشناسید فیلم Seven سایکوپت یا در بروش فیلم های خوش ساختری به نظر من البته اما بریم سراغ نمایشتامه امروزمون چلا آینیشمان یا دکریپلاف آینیشمان مارتین مکدونا سال‌های کودکیش رو در جزایر ایرلند و در زادگاه پدر و مادرش میگذروند و اولین نمایشنامه هاش الهام گرفته از همین فضا بودند شیش نمایشنامه اول مکدونا شامل دو تا تیریلوژی یا سگان است سگانه اول شامل ملکه زیبایی لینان جمجمه در کنمارا و قرب قمزده در جزیره لینان میگذرن که اسم یه جای واقعیه در ایرلند و سگانه دوم، چلاغ آینشمان،ستوان آیننیشم و بنشی های در جزایر آران میگگذارند. بنشی های آیشیر هیچ وقت منتشر نشد. اما سال 2020 خبری در اومد که مکدونا داره رو فیلمی به همین اسم کار می‌کنه. حالا اما مشخص نیست واقعا از داستان همون نمایشنا استفاده کرده یا نه. مکدونا تو این سگانه ها به خوبی فضای زندگی روستایی کوچیک در این جزیره ها رو نشون میده، و با وارد کردن فرهنگ عامه مردم ایرلند و خصوصیاتشون به این نمایشنامه ها ثابت میکنه با اینکه متولد و بزرگ شده ای لندنه، اما امیدن ریشه هاش به ایرلند برمیگرده و بهش تعلق خاطر داره. هرچند دیدگاهش تنظامیز و تا حد زیادی انتقادیه. توی این نمایشنامه که اسم بردم اونقدر مکدونا به ریشه هاش برگشته که حتی متن نمایشنامه ها رو کاملا به لحجه ایرلندی نوشته که خب متاسفانه توی ترجمه ما نمیتونیم این زرافت و این کاری که مکدونا کرده رو در بیاریم چل نیشمان اولین بار سال 1996 در تئاتر سلطنتی لندن روی صحنه رفت و سال 98 در یکی از سالونهای کوچیک که نیویورک اجرا شد سال 2013 هم دوباره در وست اند لندن با بازی دنیل ردکلیف در نقش بیلی چلاقه روی صحنه رفت و همین گروه سال 2014 به مدت محدود نمایشنامه رو در برادوی هم اجرا کردن که اون موقع خیلی خوب فروخت و همون سال نامزد شیشتا جایزه تونی هم شد برای نوشتن متن این اپیزود ما از نسخه اصلی نمایشنامه و از ترجمه شادی فرزین که انتشارات نیلا چاپ کرده استفاده کردیم متن این قسمت رو فاطمه عبدالقاسمی نوشته و مهدیص سفری هم ویرایش کرده زحمت تدوین این اپیزود هم که خواهید شنید با شکیبا اسدی بوده از همه هایی که برای ساختن این پادکست و ادامه این مسیر کنار من هستن خیلی خیلی ممنونم درباره این اپیزود حتما اینو در نظر داشته باشید که با توجه به مضمون و کلمات استفاده شده در نمایشنامه که ما سعی کردیم از نزدیکترین کلمات به متن اصلی استفاده کنیم این نمایشنامه اصلاً مناسب ها نیست و همینطور اگر هم دارید در محیط کار یا چیزی شبیه به اون نمایشنامه رو با صدای بلند گوش می‌کنید حواستون باشه که نمایشنامه کلمات رکیک داره قبل از اینکه سراغ خود نمایشنامه بریم یه نکته‌ای هست که حیف ندونیم سال 1934 رابرت فلارتی که کارگردان مستند بوده به جزایر آران سفر کرده و واقعا فیلم اونجا ساخته به اسم مردی از آران که در مورد زندگی در جزیره و کنار دریاست داستان نمایش دامه چلاقای نیشمان که به احتمال زیاد خیلی هم شبیه واقعیت نیست و از نمونه های واقعی مکدونه استفاده نکرده تا حدی حول محور ساخته شدن این فیلم و تو اون حال و هوا شکل گرفته اما مستندی که بهتون گفتم و مکدونا از اون تجربه حیجان انگیز مردم جزیره برای بستر نمایشنامه کمدی سیاهش استفاده کرده که شخصا برای من خیلی جذابه بریم سراغ خود نمایشنامه چلاق آی اثر مارتین مکدونا خیلی ها توصیه میکنن یاد گرفتن یه ساز برای هر آدمی لازمه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 مغازه روستایی کوچیکی در جزیره آینیشمان سال 1934 در مغازه سمت راست، پشت پیشخان قفصهایی از کنسرو که بیشترشون لوبیا سبزن دیده میشه. ای روی دیوار سمت چپ نصب شده و دورتر از اون میز و سندلی ها قرار گرفتن. آیلین آز برنه شست و چند ساله داره قوتی های کنسرف رو توی طبقه ها میچینه. خواهرش کیت از اتاق پشتی وارد میشه و میپرسه بیلی هنوز نیومده خونه وقتی دیر میاد خونه حسابی نگرانش میشه. آیلین میگه دستم محکم خورد به قوتی های نخود سبز اون وقت نگران بیلی چلاقه کیت میپرسه همون دست از کار افتادد. آیلین میگه نه اون یکی دستم. Kate میگه حالا دو تا دست, دست کار افتاده داری. آیلی میگه یه دست از کار افتاده و یه دست کوفته. کیت میگه جای کوفتگی خوب میشه. اون وقت بازم تو میمونی و یه دست, دست کار افتاده تا لحظه مرگت. آیلی میگه بیلی بیچاره رو بگو که علاوه بر دستاش پاهاش هم چلاقه. کیت میپرسه که قرار بیلی با دکتر برای چه ساعتی بود؟ آیلی میگه که نمیدونه. کیت یکم فکر میکنه و بعد میگه بیلی با اون پاهای چلاغش شاید افتاده باشه توی چاله چوله ی چیزی آیلین میگه نه بیلی حواسش جمعه. تو چاله افتادن کار بارتلی مک‌کور میکه. کیت میگه تخممر فروشه اومد آیلین میگه اومد اما تخممر نداشت کیت میگه وقتی تخممر نداشته باشه اومدنش هم فایده ای نداشت آیلین میگه باز همین که اومده و از انتظار درمون آورده خوب بوده چه خوبه که بیلی هم همین کارو بکنه منظورم تخممر نیاوردن نیست ولی خودش زودتر بیاد از نگرانی درمون بیاره. کیت آه میکشه. میگه لابد مثل همیشه یه جا واساده رفت تو نخ گاوا. آ일리 میگه اگر اینجوری خوشه ای بهش چیه؟ کلی کار بدتر از این هست که جوونا میکنن. کارهایی که صاف می بردشون تو جهنم. کیت هم تایید میکنه. مثل ماچ کردن دخترا. تفلک بیلی اون از این شانس‌ها نداره. هیچ وقت خدا کسی بیلی رو ماچ نمیکنه. مگر اینکه طرف کور باشه. آیلین سر تکون میده. کور یا عقب افتاده. یا دختر جیم فینگن. اون حتی خره نرم ماچ کرده. کیت میگه ولی حتی اونم واسه بیلی ناز میکنه. آیلین میگه آدم قصش میگیره. کیت تعیید میکنه. آدم قصش میگیره چون از حق نگذرین بیلی قیافه قشنگی داره. آیلین چپ چپ نگاه میکنه. نه دیگه اونجورم کیت میگه چرا یکمی قیافش ملیه. چشماش قشنگه آیلین آه میکشه نمیخوام بیانصافی کنم ولی چشم بوز ملیه تر تابیلی اگه آدم حسابی بود باز یه چیزی آخه اینم شد کار که ول بگرد و زل بزنه به گاوا کیت میگه دلم میخواد یه روز ازش بپرسم این همه زدی به گاوا گیر رو تو من. زدم به گاوا و بعدش هم کتاب خوندن. ایشگی زن همچین آدمی نمیشه. تا دم بی خیریش خودمونه. آیلین میگه آره ولی من نارد نمیشم تا دم مرد بیخیریشمون باشه. کیت میگه منم. حالا گاوا به کنار. بیلی خدایش جوان خوبیه. در مغازه باز میشه و جانی پتین مایک پیرمردی مردی تقریبا همسن و سال این دوتا وارد میشه. و سرحال میگه اوزا چطوره؟ جانی پتین مایک امروز وسط اون تا خبر داره کیت میپره وسط حرفش جانی پتین اومدنی بیلی چلاقه رو ندیدی؟ جانی میگه پریدی وسط حرفم خانم آزبورد گفته باشم سه بومین خبرم از اون خبرهای درست حسابیه حالا اگه میخواینی با سوالای مسقلتون حرفم رو قط کنین خب قط کنین آها بیلی چلاقه هم دیدم رو پرچین مزرعهی دارسین نشسته بود. کیت میپرسه رو پرچین چی کار می‌کرد؟ جانی میگه همیشه چیکار می‌کنه زل زده بود به گاوا. اگه دیگه نمی‌خوایم بپریم تو ارفن بریم سراغ ستا خبر من. اولیش اینه که یه یارویی توی لترمار کتاب یه یارویی دیگر رو از خونه‌اش دزدیده و پرت کرده تو دریا. آیلین کلافه میگه این که اصلا خبر حساب نمیشه جانی میگه منم اولش همین فکر کردم ولی یارو برادر اون یکی بوده و کتابه هم انجیل بوده. حالا چی میگین؟ کیت میگه واوی خدا به دادمون برسه. جانی میگه خب دوم این خبر. جک الری دم گربه پت برنان رو گاز گرفته و لطو پارش کرده. ولی جک الری حتی یه معذرت خوشکخالی هم نخواسته. الان دیگه میونه جک الری و پتی برنان حسابی شکرابه. هرچند قبلا با هم درسته سابی رفیق بودن ولی قاظم ممکنه مایه شرشه و دعوا حسابی بالا بگیره من که امیدوارم بگیره بیلی 17 ساله لخ, لخ کنان با دست و پای معیوب وارد میشه شرمندگی دیر کرد امام کیت اما آ일리 حالم خوبه دکتر هم گفت سینم هیچ چیش نیست فقط یکم خس خس داره جانی که بهش برخورد میگه نشینده بودم سینه این بچه خس خس کنه چطوری تا حالا جانی پتین خبردار نشده؟ ولی هیچکی محلش نمیذاره کیت میپرسه پس چرا انقدر دیر اومدی خونه بیلی؟ دل با پس شدیم بیلی میگه واسه خودم تو آفتاب مزرعی دارسی نشسته بودم و هیچ کاری نمیکردم کیت خطاب به جانی چشم عبرو میان بفرما بیلی ادامه میده فقط به گاوا نگاه میکردم جانی به کیت میگه حالا کی باید به فرماتان آیلین با قصه میگه بیلی نمیشه دست از سر این گاوا برداری بیلی میگه خب نگاه کردم به گاوا منو خوشحال میکنه و نمیذاره که بگم زور بگه جانی میگه خب اگه خبرم خبرامو گوش کنین بردارم ببرمش یادت ده دهاتی مشنگ سر گاوا بحث میکنن آیلین برای اینکه شر قضیه رو بخوابونه میگه خب خبرت چیه جانی پاتیم مایک جانی این پشت چشم نازک میکنه و میگه اگه بحثتون سر گاوا تموم شد من خبرامو میگم هرچند اگه خبرامو ببرم واسه اون حل بهتر گوش میکنن کیت و آیلین از جانی میخوان خبراشو بگه بیلی زیر لب میگه دیگه انقدر لیلی به لالاش نذاری جانی میگه لیلی به لالای من نذارن؟ بیلی چلاقه؟ بیلی میگه دیگه بهم به نگو بیلی چلاقه جانی میگه چرا مگه اسمت بیلی نیست؟ مگه چلاق نیستی؟ بیلی میگه خوبه منم اسم تو رو بذارم جانی پت مایکی که خبراش انقدر زغارته که حسلی زنبور مردرم سر میبره جانی به بیلی محل نمیده و بداخل خبر رو میگه از هالیوود از آمریکا میان اینجا رئیسشون هم یه یاروی به اسم رابرت فلارتی که از معروفترین و خرپولترین آدم های دنیاست دارم میرن با آینیش مور فکر میکنیم واسه چی؟ الان بهتون میگم یه یعنی فیلم بسازن که بیشتر از یه میلیون دلار خرج داره و تو کل دنیا نشونش میدن. درباره زندگی تو جزیره است و همه ستاره های فیلمو از مردم جزیره انتخاب میکنن. میبرنشون و یه زندگی مفت و مسلّم بهشون میدن که توش لازم نیست کار کنن. آخه بازیگری که نشود کار، بازیگری فقط حرف زدنه. خبرشو دارم که از همین الان کالمن کینگ واسه یه نقش انتخاب شده با هفته 100 دلار دستمزد. اگه اون میتونه بازی کنه پس همه میتونن قیافش اینه هو گوه شب مونده است اینو دیگه همه قبول دارن خلاصه جانی پتی مایک پیشگویی میکنه که یه گروه کوچیک دارن میان به این جزیره بزرگ و خیال دارن کل دختر و پسرای جوون اینجا که بر روشون به ستاره های هالیوود بخوره رو توی آمریکا مشهور کنن البته معلومه به حالی این خونه مربوط نمیشه مگه اینکه فیلمشون راجع به یه چلاقی چیزی باشه یا راجع به یه آدم نمک نشناسه خود من اگه جوون بودم با چشمای آبی و موای پر پرپشتم حتما انتخاب می میشدم. تازه هنوزشم ممکن انتخابم کنم با اون قوه سخنوری و فن بیان مشهوری که دارم. میذارم روی دست همه اون پس های تاتر دوبلین. فقط حیف که من باید از مادر داملخمرم مراقبت کنم. راستی قرار اسم این فیلمو بذارم مردی از آران. ایرلند نباز همچینم هم جای بدی باشه. وقتی آمریکایی‌ها میخوام بیان فیلمشون اینجا بسازن. این هم از خبر خبره جانی پتین مایک. حالا شما بفرمایید آقا پسر. این خبر حسل سربر بود. بیلی که قرقه در فکره میگه نه اصلا بزرگترین خبری بود که تو عمرم شنیدم. جانی میگه مزد خبر رسونیم با سخابت با حساب میکنم. دست مزد امروزم یه جبه تخم و مرغه. چون واقعا حوث رو املت کردم. آیلین میگه تخم مرغ فروش امروز تخم مرغ نداشته. جانی میپرسه پس شماها چی دارین واسه ای من؟ آیلین میگه نخودسبز. جانی میگه نخود سبز که واسه یه مرد گنده نشود عصرونه. پس اون تیکه گوشتی که اونجاست رو بده به من. آیلین میگه ببین خبرات اونقدرام حسابی که نبودن جانی پاتین. جانی با تنفر بهشون نگاه میکنه بعد عصبانی از در بیرون میره. بیلی میگه خبر جالبی بود. کیت میره نزدیک بیلی میگه بیلی تو که معمولا واسه خبرهای علکی جانی پتین ترم خورد نمیکردی بیلی میگه واسه این که همیشه خبر قش کردن قرباقه ها رو می آورد ولی حالا خبرش راجع به یه فیلمه راجع به خلاصی من از آینشمان، آیلین نچ نچی میکنه وقتی دکتر سینت رو مایینه میکرد یه نگاه به مخت ننداخت بیلی در مغازه یهو یه باز میشه و جانی به داخل سرک میکشه. اگه نمیاین دنبالم حداقل اون نوخدهای کوفتیتون رو میبرم آیلین یه قوطی نخود سبز به جانی میده جانی در و محکم میکوبه و میره بارتلی 16 ساله به طرف پیشخان مغازه اون دو تا خواهر میره و نگاهی به آبنباتا میندازه. آیلین پشت پیشخانه و بیلی روی صندلی نشسته و داره کتاب میخونه. آیلین میگه همینایی رو داریم که میبینی. بارتلی مک کرمیک. بارتلی میگه تو آمریکا آبنبات نعنایی هم دارن. اممری مری من یه بسته برام فرستاده از بوستون ماساچوست. توش هفت تا آب نبات نعناییه واقعا باید آب نبات نعنایی بیارین چون خیلی خوشمزه است یکی رو تو آمریکا پیدا کنی که براتون بفرسته اما خب حالا که ندارین فعلا مجبورم یه نگاهی به همینا بندازم یالا مالو دارین آیلین میگه همینایی رو داریم که می‌بینی فارتلی میگه تو آمریکا یالا مالو دارن. علی ما طعنه میگه حتما پس همه مرید برات یه بسته فرستاده که چند تا یالامالو توشه نه بارتی میگه نه یه بسته فرستاده که عکس یالامالو توشه چیز شیرین فقط همون هفت آب نبات نعنایی رو فرستاده ولی فکر کنم بهتر بود برام چهار تا آب نبات نعنایی میفرستاد سه تا یالامالو اون وقت یه مجموعه داشتم ولی راستشو بخواین من با همین هفت آب نبات نعنایی هم خیلی حال کردم ولی شما که نداری آیلی میگه نه. همین آیل رو داریم که میبینیم. بارتلی آه میکشه. پس مجبورم یه نگاه دیگه بندازم. میدونی واسه مسافرت یه چیز مکیدنی میخوام. بیلی گوشش تیز میشه. کدوم مسافرت بارتلی در مغازه باز میشه و هلن دختر زیبای تقریبا 17 سالهی وارد مغازه میشه و سر بارتلی داد میزنه. تا یه کوفتی خیال نداری بیای آیلین بانزجار با میگه این روزا دختره جوونم فوش شد گرفتن هلن میگه آره وقتی برادر کودنشون یه ساعت می‌کاردشون باید بایدم فوش بدن سلام بیلی چلاقه بازم داری از اون کتابای کوفتی عتیقه میخونی؟ دست بر نمیداری؟ بیلی میگه یه وقتایی دست بر میدارم آیلین میگه هلن شنفتم دیروز کل تخم مرغای تخم مرغفروشه رو انداختیش هلن میگه هیچم نداختم. فقط چهار تا از اون چلقوزا رو پرت کردم توی صورت پدر برت. دندنشو صاف کردم. آ일리 میگه جدی تو خور پرت کردن به کشیشا بی‌حرمتی به خدا نیست؟ اله میگه شاید باشه اما اگه خود خدا هم موقعی خوندن تو گروه کور از پشت انگولکم کرد، بهش تخم مرغ پرت می‌کردم. بورتگاز آ일리 میپرسه چاکی تاپ دراپس نداری خانم؟ آ일리 میگه خودت میدونی جوابم چیه بورتلی نمی‌دونی؟ بارتلی میگه میخواین بگین همینایی رو داریم که میبینم پس من یه نگاه دیگه میندازم بیلی باز بحث و میکشونه به مسافرم رو به میگه بارتلی گفت داریم میریم مسافرت هلم میگه داریم با کشتی میریم آینشمر سر اون فیمه که دارن میسازن صبح اول وقت میریم بارتلی میگه ایرلند نباید همچین جای بدی باشه وقتی آمریکاا میان اینجا فیلمشون رو پرکنن من که دارم زخمرد میشم برم تو فیلم بازی کنم هلن میگه، هی hey, تو داری چیز میز یا ور میزنی؟ بارتلی میگه می هم چیز میز هم ور میزنم. بیلی میپرسه از کجا معلوم استن ازتون بخوان که بیان تو فیلم بازی کنید؟ اصلا راتون نمیدن اونجا. هلن میگه حالا ببینا اگه اینقدر خوشگلم که کشیشا هم میخوان انگوشتم کنن، اسلام واسم سخت نیست یا رو فیلم یارو سر انگوشتم به چار میگه از کجا معلوم؟ کشیش آدم و انگولک کنه که بلدی نمیخواد. تازه واسه خوشگلی هم نیست. بیشتر واسه اینه که بی کس و کاری ریزه میزه. هلم میگه بیلی چولاغم ریزه میزه است و بیشتر وقت هم تنها میپلکه. اما تا حالا کشیش انگولکش کردن؟ بیلی میگه نه. هلم میگه بفرما. بارتلی با آیلین میگه شما فریپل فراپل ندارین خانوم؟ آیلین بهش ظلم میزنه. عمه جبار میاره پایین میچینه رو پیشخان و خودش میره اتاق پشت. بارتلی میگه بیلی چولاغ این عمت است دا دیوونه. الی میگه خانم آزبورن که عمه بیلی چولاغه نیست فقط بزرگش کردن. چون پدر و مادر بیلی وقتی فهمیدن بیلی چولاغ به دنیا اومده رفتن خودشونو غرق کردن. بیلی میگه خودشونو غرق نکردن. تو دریای طوفانی از قایق افتادن بیرون. هلن میگه آهان اون وقت تو دریای طوفانی چه غلطی میکردن لا ماهیگیری میکردن تازه اگه شب نبوده؟ بیلی میگه داشتن سعی میکردن برن آمریکا. هلن میگه نه خیر داشتن سعی میکردن از تو فرار کنن. دور بشن یا بمیرن براشون هیچ فرقی نداشت. بیلی میگه خب تو یهو اینا رو از کجا میدونی وقتی تو هم اون موقع مثل من بچه بودی؟ هلن میگه یه دفعه به جانی پاتین کلیچه پنیری دادم واسم تعریف کرد. مگه اینجوری نبوده که تو رو دم ساحل پیشون ول کرده بودن و خودشون قلب سنگ بسته بودن به پاهشون بیلی میگه اینا همش شایه است حتی جانی پتین هم قبول داره که شایه است تازه جانی از کجا میدونسته که تو سر اونا چی میگذشته اون که تو قایق نبوده بارتلی میگه شاید تلسکوب داشته الان تو آمریکا هزار جور تلسکوب محشر است میدونستی آدم میتونه یک کرن رو از مایلی ببینه؟ حلن میگه چرا آدم دلش میخواد یه کرم کرمو اونم از یه مایل دورتر ببینه؟ بارتلی میگه ببینی که چی کار میکنه؟ حلن میگه خب کرما معمولا چی کار میکنن؟ بارتلی میگه بول میخورن حلن میگه اون وقت قیمت تلسکوپ چنده؟ بارتلی میگه خوبش Albertoedze دلاره. حلن میگه یعنی تو حاضری دوازده دلار بدی که بفهمی کرم داره؟ وول میخوره یا نمیخوره؟ بارتلی میگه آره حاضرم هلم میگه تو کلا دوازده تامور روی تخمات سبز نشده بعد حرف دوازده دلار رو میزنی اونم برای تلسکوپ و به بارتلی نزدیک میشه و محکم به شکمش ضربه میزنه. بارتلی پیچ و تاب میخوره دندم رو چکستی؟ میگه مردشور دنده رو ببرن این چجور حرف زدن گوهیه با من ها؟ بیلی چالاقه داشتیم چی میگفتیم؟ آها پدر مادرت که مردن بیلی میگه خودشون رو به خاطر من قرق نکردن چون دوستم داشتن هلن میگه دوستت داشتن؟ خودت اگه یکی دیگه بودی خودتو دوست داشتی؟ همین حالم که خودتی به زور خودتو تحمل میکنی بارتلی که داره پیچو تاپ میخوره میگه بیلی چول هرچی از اقلم مش نمیکوبه تو دندهی بچه بیچاره هلن میگه چون که علیله بزنه انگار یه قاز مش زده. ببینم از وقتی پدر و مادرت مردن هیچ وقت نرفتی دریا رفتی بیلی؟ واسه این نیست که حسابی میترسی بیلی میگه چرا؟ حسابی میترسم بارتلی میگه معلومه خب عقل تو کلش باشه اقلم یه ذره از دریا میترسه هلم میگه من یه ذره هم از دریا نمیترسم بارتلی میگه بفرمان نگفتم بیلی چلاقه راسته وقتی پدر و مادرت مردن تو 100 پوند بیمه گرفتی؟ بیلی میگه آره. بارتلی میپرسه یا خدا خ... انوزم داریش؟ بیلی میگه نه. همش همون موقع سر دو درمون هم رفت. چطور؟ بارتلی میگه اگه یک چهارمشو داشتی الان میتونه سی باسه خود تلسکوپ با کلاس بخری هلن میگه تو باید پای تلسکوپ کفتی و توی هر بحث کسافتی باز کنی دیگه نه؟ بارتلی میگه. نه خیر ولی خوشم میاد باز کنم بلم کن دیگه پتیاره و قبل از اینکه دست هلن بهش برسه فرار میکنه و از مغازه میره بیرون بیلی میگه تا آینش مرد چجوری میرین هلن شما که قایق ندارین هلن میگه بیبی بی بابی بنت رو راضی کردیم با قایقش ببردهمون. بیلی میگه بهش پول میدین هلن میگه نه فقط ماچو یه خوردم دستشو میگیرم یعنی امیدوارم فقط دستشو بگیرم ولی دختر جیم فینگان میگفت خیلی کلفته مال همه رو دیده فکر کنم واسهشون نمودارم درست کرده بلی میگه مال منو که ندیده هلن میگه یه جوری میگی انگار افتخارم میکنی تو انقدر در بود داغون و ریغون ای که گمونمون حتی اصلا فکر نکنه تو آدمی تو هم نگهدار واسه خودتون من فقط مال کشیشار رو دیدم همش نشونم میدن نمیم چرا حالا چرا زانوی غم بغل گرفتی؟ بیلی میگه که نمیدونم. فقط گمونم اینه که زور زدی حالی میکنیم پدر و مادرم ترجیح دادم بمیرن تا از شر من خلاص شد. همچینم هم با این کاری که کردی حالی باسه آدم نمیمونه. میمونه؟ تو که نمیدونی چه بلایی سر اونا اومده میدونی؟ هلن میگه مگه تو میدونی؟ بیلی قمگین سر خم میکنه و هلن با انگشت ضربه محکمی به گونش بعد کنار. بیلی میگه هلن ممکنه بیبی بی بابی به من اجازه بده باهاتون بیام مور. هلن میگه فکر نکنم دوست داشته باشه دست چلاقه تو یکی رو بگیره ولی حالا اصلا واسه چی میخوای بیای بیلی شونهاشو بالا میندازه میگه که تو فیلم باشم دیگه هلن میگه تو <تصفح> میزنه زیر خنده و آروم به سمت در میره نوبت به بخندم بیلی <تصفح> ولی میخندم بعد هلن از در خارج میشه همون جوری خندون و آیلین از اتاق عقبی بر میگرده و به گناه بیلی سیلی میزنه آیلین میگه مگه از رو نه من رچی بری آیانیش تو فیلم بازی کنی بیلی کلاون بیلی میگه فقط داشتم با صدای بلند فکر میکردم آیلین میگه با صدای بلند فکر نکن با صدای آروم فکر نکن آیلین دوباره به اتاق پشتی بر بیلی بولن میشه و لخ لخ میره سمت آینه یه مدت خودش رو نگاه میکنه بعدش غمگین لفلخ کنان برمیگرده سمت میز بارتلی در مغازه باز میکنه و سرش رو میاره داخل بارتلی میگه بیلی چلاقه میشه به امت یا عمه قلابیت بگی بعدن میام آبنبات نعنایی بخرم یا نه کلا بگو بعدن میام نبات بخرم بیلی چلاقه انگاری زر دمقی بیلی میگه که نه خوبم. بارتلی خارج میشه. بیلی آروم سرفه میکنه و سیناشو میماله. خوبم. آره خوبم. شب توی ساحل بیبی بی بابی داره قایقش رو تعمیر میکنه که جانی وارد میشه جانی همون یاروه که خبر می آورد و می برد یکم مست به بیبی بی بابی میگه داری قایقتو آماده کنی؟ بابی بوبی بابی میگه آره جانی پتن جانی میگه پس داری قایقت آماده میکنی. تر و تمیزش می‌کنی قشنگ و ردیفش کنی. آمادهش میکنی واسه سفری چیزی قایق قشنگیه قشنگه قایق قشنگیه واسه سفر تازه الان که داری واسه خودت ردیفش میکنی نظار بارم قشنگ تره فاماده. بابی میگه اگه سوالی هست باید ازم بپرسی به در و دیوار نزن بی خودی هم این بچه دوستانی خنگ هاشیه نرو جانی میگه، اگه جانی پتین سوالی داشته باشه، همون موقع که دهنش رو میکنه میپرسه. خیال نکنی جانی پتین رو هاشیه ها فقط نظر میده که چقدر قیقه قشنگه. همین، چقدر قشنگ داری آمادش میکنی؟ قشنگ آماده با سه سفری چیزی؟ خب اگه خیال نداری بگی کجا میخوایی بری بزنم به چاک بابی میگه آره بزنم به چاک جانی میگه پس چی که میزنم به چاک با این اخلاقه تو هیچ وقت به من خبر نمیدی پارسال زنت سل گرفت و مرد کیا خرس هم فهمید من تا روزی که مرد کسی چیزی به من نگفت و تو چند هفته می دونستی این که هیچ به فکر احساسات من باشی من یه دفعه دیگه میگم که داری قایق تو آماده میکنی. لابد داره قشنگ و ردیفش میکنی واسه سفری چیزی. بابی میگه جانی پتی. رو کراست بپرس. منم خوشحال میشم جواب بدم. جانی لحظهی به بابی زر میزنه. عصبانی میشه و داد و هبار میره بیرون. بابی مشغول تعمیر قایق میشه که صدایی میشنوه. یه کیه پشت سنگا لخ میکنه؟ صدای بیلی از بیرون صحنه میاد بیلی کلاونم بیبی بابی بابی میگه باز حدس میزدم که کی داره لخ لخ میکنه بیلی چلاقه اما هات نگران نمیشن تا این وقت بیرونی بیلی میگه تو هم فکر میکنی اما های یه؟ بابی میگه یه دفعه دیدم اما کیتت داشت با یه سنگ حرف میزد بیلی میگه اون وقت سر من داد میزنه چرا رو تماشا میکنم ولی من فقط واسه این به گاوا زل میزنم که یکم از عمههام دور باشم. وگرنه زل زدم به گاوا که کیفی نداره. فقط وای میسنو این خر به آدم زل میزنن. بابی میگه تا حالا چیزی پرت کردی طرفشون؟ بیلی میگه من که نمیخوام اذیتشون کنم. همیشه با خودم کتاب میبرم. مرض ندارم حیوانات اهلی رو اذیت کنم که. بابی میگه خب میتونی کتابو پرت کنی طرفشون. بیلی میگه خب ترجیح میدم که رو بخونم بابی داری قایقتو تو آماده میکنی که هلن و بارتلی رو ببری سر فیلم بابی اطراف میپاد تا مطمئن بشه جانی اون دوروبر نیست بعد بر میگرده سمت بیلی بیلی هم وارد صحنه میشه بابی میگه کی بهت گفته خدایا به این هلن گفتم اگه جلوی دهنشو یه مش میکوبم تو دهنشا بیلی میگه چون به جای پول قرار هلن بوست کنه. بابی میگه آره ولی من اصلا پول نمیخواستم. رو اون قضیه بوس هم خود هلن اصرار کرد. وگرنه من یکم از هلن میترسم راستش. خیلی وحشیه. ولی به هر حال آره خدامون بدم نمیاد کارو بار فیلم پرکونا رو ببینم. چه ضرری داره حالا مسافرم ببرم. بلی میگه میشه منم مسافر حساب کنی؟ بابی یکم فکر میکنه بعد قاطعانه میگه نه. چلاخ سوار کردن بدیوم. اینو همه میدونن. بیلی میگه این مسخره ترین حرفیه که تا حالا شنیدم. تو فقط از چلاغا خوشت نمیاد. بابی میگه اصلا هم با چلاغا مسئله ندارم. تازه یه یه دختره ی چلاغ ماچ کردم. تازه زشتم بود. ولی خب مست بودم حالیم نبود. پیش دختره ی بد ترکی به آنتریم تو همچین هم زایه نیستی. دختره از اون افریت ترسناک بود. آنتریم یه ایرلند شمالی. بیلی میگه موضوع عوض نکن منو میبریانه میبری یا نه؟ بابی میگه نه هیچ شلاغی تو این قایق پا نمیذاره شاید بعدن اگر پات خوب شد بذارم سبارشی بیلی در حالی که نامه ای از جیبش در میاره میگه بعدم به درد من نمیخوره بابی این نامه دکتر مکشریه قسم بخور راجبش به ایش کی چیزی نگی و نامه رو به بابی میده بابی شروع به خوندن میکنه از وسط نام چهرهش قمگین میشه. نگاهی به بیلی میندازه و میگه فردا ساعت 9 صبح اینجا باش. بیلی تشکر میکنه و نامه رو پس میگیره. جانی سری وارد میشه و دستش رو میاره جلو. هیچ کس از جاش تکون نخوره. چلاق اون نامه رو رد کن بیاد. بیلی میگه بهت نمیدم. جانی با هرس میگه یعنی چی نمیدم؟ به اون که نشون دادی بده ببینم. بیلی میگه نمیدم. حالا کسی بهت گفته یکم پررویی؟ جانی که ارثش گرفته میگه من پرروم من پرروم اونم وقتی شما دوتا نامه رو صاحب شدین اونم نامه دکتر که از همه نامه ها جالبتره تره. یالا نامه رو رات کنم بیاد ببینم. یه چیزایی که امشب شنیدم، اون وقتی که راز باقی نمیمونه. بابی میگه مثلا چی شنیدی؟ جانی میگه مثلا این که بچه مدرسه رو با قایق میبری رو با آنتریم سر و سرداری. نکه بخوام تهدید کنم یا باج بگیرم. خیلی خوب. دارم با تهدید ازتون باج میگیرم. ولی یه خبرنگار باید هر جور شده خبرشو به چنگ گیاره. حتی با چنگ و دندون. بابی میگه چنگ و پس اینو داشته باش و موهای جانی رو چنگ میزنه. و بازوشو فشار میده و مجبورش میکنه روی زمین بخوابه. جانی با درد میگه هیچالاخ پسر. شال بزن برو پلیس بیار بجنب بیلی میگه میخوام اینجا وایسم و حالشو ببرم بابی به بیلی میگه برو واسم چند تا سنگ متوسط جمع کن و بیلی هم میره چند تا سنگ میاره بابی میگه میخوام اینقدر با سنگ بزنم تو سرت که قول بدی دیگه خبری از من نبری و نیاری جانی میگه عمرم بتونی همچین قولی بگیری من طاقت هر شکنجه ای رو دارم من یه آدمیم، عینهو کوین بری کوین بری جوون 18 ساله یه جمهوری خواه ایرلندی بود که توسط دولت انگلیس ادام شد. مقاومتش زیر پشکندن خیلی معروفه و به فرهنگ آمی ایرلند هم وارد شد. بابی یه سنگ به سر جانی میزن. جانی ناله کنم میگه آخ آخ خ خ میدم خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ جانی بلند میشه و خودشو می تکونه. میگه حتی انگلیسیان با هم رفتاری نمی که شما کردی بابی میگه قولت یادت نره جانی میگه قول زیر شکنجه که حساب نیست بابی میگه به درک اسفل که قولت زیر چی دادی فقط یادت نره جانی میگه باشه جا کشا باشه جانی دادو حوار کنان مشتشو تکوم میده و میره بابی نفسشو میده بیرون میگه 15 سال بود میخواستم با سنگ بکوبم تو کله این بابا بهتره قرار فردا رو به جای 9 بذاریم ساعت هشت قبل از اینکه این جانی دهن لقی کنه بیلی میپرسی یعنی هنوزم به جانی اطمینان نداری بابی میگه همونقدر اطمینان دارم که تو بتونی لیوان آب بیاری بی اینکه چیزی ازش بریزه بیلی کنان میگه مثال قشنگی نبود بابی میگه من آدم خشنی بیلی مخالفت میگه هیچ هم اینطور نیست. تو خیلی دل رحم و مهربونی. بابی آه میکشه میگه میدونی زن من آنی هم از همین مریضی مرد. سل. ولی حتی اقل من یه سال وقت داشتم باهاش زندگی کنم. سه ماه هیچی نیست. ولی میگه آره من حتی به تابستونم نمی رسم. یادت وقتی آبل مرغون گرفته بودم آنی برام شیرینی مرپایی درست میکرد. بابی می پرسه حالا شیرنی خوشمزه خوشمزده بودن؟ بابی میگه نه آنیه بیچاره هیچ رقمه نمیتونست شیرینی درست کنه. تنوز دلم واسه تنگ میشه. واسه هرچی به جز اون شیرنی های به هر حال خوشحال میشم کمکت کنم بیلی چلاقه. بیلی میگه میشه یه لطفی کنی دیگه به هم نگی چلاق فقط صدام کنی بیلی. بابی قبول میکنه. بیلی سری تکمید و لخ لخ کنان دور میشه. بابی متوجه چیزی کنار موجهای ساحل میشه. انجیلی رو از آب بیرون میاره لحظهای بهش نگاه میکنه و دوباره پرتش میکنه تو دریا و به کارش ادامه میده. اتاق مامی اودوگال مادر پیر 90 ساله جانی مامی تو رخت خواب دکتر مکشاری داره مایه نش کن جانی اون داره همطوری برای خودش میپلک دکتر میگه خانم مشروب و کنار گذاشتین مامی در حال کاروغ میزنه میگه مشروب و کنار گذاشتم آره یه جورایی گذاشتم کنار جانی میگه گهگاهی آبجو میزنن که خب ضرری نداره مامی میگه آره البته گهگاه یکی دو تا پیک ویسکیم میرم بالا جانی میگه به توی خرف نگفته بودم حرف به ویسکی رو به دکتر نزنی دکتر میگه گهگاه یعنی چند وقت به چند وقت جانی میگه چی بشه آفتاب از کدوم ور در بیاد مامی میگه چی بشه آفتاب از کدوم ور در بیاد بعضی وقتا موقعی صبحونه. دکتر میگه جانی پتیمای. تو نمیدونی نباید به پیر زن ساله اول صبح عوض آب ویسکی بدی؟ جانی میگه آخه خودش دوست داره. تازه فقط همین صدا می بره. مامی میگه آخه این یه چیک ویسکی رو دوست دارم واقعا. گرچه دلم بیشتر ویسکی خونگی میخواد دکتر. دکتر میگه بهت ویسکی خونگی نمیده؟ مامی میگه نه. به این ویسکی خونگی نمیده جانی میگه بفرما که این بفرماه مثلا یعنی آره نگاه که من چقدر مراقب مامانم نمیم بهش ویسکی خونگی نمیده مامی میگه البته فقط یه وقتای خاصی دکتر میگه این وقتای خاصی یعنی چه وقتایی؟ مامی میگه جمعی باشه ای باشه مثلا یک شنبه ها دکتر چپ چپ به جانی نگاه میکنه جانی پتی وقتی مادرت مرد و خلاص شد میام کبدشو در میارم و نشونت میدم مراقبت های ویژه شما چه گندی بهش زده جانی میگه نه دکتر من حتی نمیتونم ظاهر شکمشو نگاه کنم چه برسه توی دل و رودش دکتر میگه که چه حرف قشنگی که آدم جلوی مامانش اینطوری طوری بگه جانی میگه هی تو همین الان دست از سر مادرم بردار با اون دب و درمونه اگه اون شست و پنج سال که زور میزنه خود شما مشروب بکشه و هنوزم موفق نشده حالا من واسه چی باید نگرانش باشم؟ شست و پنج سال گندش بزنن هیچ کاری درست نمیتونه انجام بده دکتر میگه خانم چرا میخوای خودتو با مشروب بکشی؟ مامی میگه دلم واسه شوهرم دونال تنگ شده کوسه خوردش مرد نازنینی بود سالها زندگی کردن با این پسر چلغوزش تنها چیزی که برام داره یاداوری اون خدا بیا جانی میگه به کی میگی چلغوز خرفت سیبیلو مگه من کارم رو نکردم که برم پی دکتر مکشاری واسه خاطر تو مامی میگه چرا ولی فقط رفتی چون میخواستی تو کار بیلی کنی جانی میگه نه نه نه نه نه تو همیشه بند و آب میدی مامی میگه من آدم صادقیم جانی پتی تو هم به کافی مستم نکرده بودی. دکتر وسایلش رو جمع میکنه و میذاره تو کیف سیاهش من علاق و به باور کردم تو مریض اومدم اینجا پس قضیه از این قراره جانی میگه کسی دروغ نگفته قبل از اینکه بیای حالش خیلی بد بود سرفه و مامی مامی سرفه میکنه جانی میگه انگار سررف ناجورترش قد شده با این حال راست گفتی دکتر میگم دکتر حالا که اینجایی بگو ببینم قضیه بلیط چیه؟ که قضیه خیلی بد جوره که شما براش نامه نوشتی دکتر میگه تا اله نشنیدی که دکتر محرم اصرار بیماراشه جانی میگه شنیدم و گمونم خیلی هم خوبه حالا دکتر بهم بگو بیلی چلاقه چشه دکتر میگه یه روزی اون کلت رو باز میکنم وقت میفهمم هیچی توش نیست جانی جانی میگه حالا خاکی نزن دیگه بین بگو چشه واسه م... واسه شاید این حرف فعلانه دیگه رفتی به قضیه داشت چیزی تو سرش مشکل درست کر تومور مغزی پسر تومور مغزی داره عجب خبر بد ای دکتره میگه که من دارم میرم خونه اما قبل از رفتن یه چیزی بهت بگم من نمیدونم این اطلاع تو در باری بیلی از کجا گرفتی واسه این که معمولا اتفاقی که گیر میاری خیلی دقیق جانیم میگه فلج اطفال فلج اطفال فلج اطفال گرفته دکتر میگه که تا اونجایی که من خبر دارم غیر از معیوب بودن مادرزادیش بیلی ابدا مشکلی نداره تو هم بهتر این شایعات احمقانه تو جایی پخش نکنی جانی میگه آها سل سل پسر سل گرفته دکتر این لحظه خارج میشه هی یارو یعنی این که بیلی با این وضع سلامتیش همچین روز سردی پاشه را بیفته بره آینیش مور براش مزر نیست دکتر برمیگرده توی فکر جانی میگه حرف من نبود که زود برش گردون مامی میگه گقیقا. مثل گوز در رفته دکتر با نگرانی میپرسه بیلی رفته آینیش جانی میگه آره با مکر میکار رفته بیبی بابی بردتشون آه سی بیبی بابی باید بابت بلایی که سر من آورد بیفته هولفتونی زده تو سرم دکتر میگه رفتن فیلمبرداری رو تماشا کنن آخه فیلمبرداری که دیروز تموم شد امروز فقط دارن دوربینای عتیقه‌شون رو جمع می‌کنن برن جانی میگه آه غلط نکنم ها خبر فیلمبرداری رو از جای پرتی گرفته بودن مامی میگه آره از همین چلقوز جانی میگه گفتم به من نگو چلقوز مامی میگه یا آبکی بده من بدنازم بالا چلقوز جانی میگه اگه چلقوزو پس بگیری بده یا آبکی. مامی میگه چلقوزو پس میگیرم. و البته توی نسخه اصلی نمای بهش نمیگه چلغوز بهش میگه قاز ولی انگار چلغوز در فارسی بیشتر به جانی میاد جانی یه لیوان بزرگ ویسکی براش میریزه دکتر مبوته <تصفيق> بهش میگه نریز بابا نریز پس من این همه وقت داشتم با دیوار حرف میزدم جانی میگه شما میه پیک بزنید دکتر به سلامتی این خبری که بهتون دادم بعد این برگه برنده که درoverline بیلی چلاقه رو کردم وقتی بیلی مرده برگشت خونه اونم محض خاطر رازداری جناب اون وقت می‌بینیم که بازم بل, بل زبونی می‌کنی نه از دکتری اخراج می‌شی و مجبور می‌شی دنبال گاوای کلچول بدوی این همون چیزیه که همیشه لایقش بودی دکتر دکتر میگه اون بر نمی‌گرده چون هیچ باکیش نیست جز خس‌خس سیناش. جانی میگه ها سرطان سرطان نکنه سرطانه بهم همه گو اول مریضیش با چی شروع میشه سین یا فه ببین بالاخره تحتوی قضیه رو که در میارم مکشاری شده با چنگ و دندون خبرنگار حسابی هیچ وقت جواب نه حالیش نیست بعد روی تخت میشین و شروع میکنه به روزنامه خوندن مامی میگه نه حالید نیست که سنگ زدم به کلت دیگه با اون خبرای گوهید جانی میگه گفتم قضیه سنگ رو بیخیال شو وگر یه لگت میزنم در کون سیاه تا خبرای من گوه نیست محرک است شنیده بودی قاز جکلری و گربه پت برنان هر دو یه هفته از گم شدن قلط نکنم بلای ناجوری سرشون اومده یا امیدوارم بلای ناجوری سرشون اومده باشه مامی میگه با اینکه خودمی؟ اما بهت گفته باشم جانی پتی تو کسل کننده ترین دهاتی ایرلندی تازه با اینکه کلی هم رقیب داری جانی بیتوچه و برف مادرش میگه اینجا نوشته تو کری یه گوزفند بیگوش پیدا شده باید خبرش رو یادتاش کنم قناص خبر جالبیه قناصی کلن خبر جالبیه البته در کنار بیماری های مامی میگه بیچاره بیلی به این عمرم چقدر تابوت دیدم که پسرهای جوان توش خوابیدن جانی میگه پسیه قلب دیگه هم بزن بلکه این دفعه خودت توی یکی از اون تابوت ها بخوای. مامی میگه انقدر سبت میکنم تا اول تو رو تو تابوت ببینم جانی پاتیم. جانی میگه که اصلا با آمزده نبود من اون روزی حال میکنم که تو رو تو تابوت ببینم که اندازت باشه البته اگه بتونیم تاوودی پیدا کنیم که بشه توی خرس گنده رو به هر بدبختی توش جا داد اول باید نصف چردیویات رو آب کنیم که بتونیم جات کنیم مامی میگه که جانی پتی بد جوری ناراحتم میکنی با این فرمایشات و حال به هم زنه اولاغ کودن اگه چیز به درد بخوایی تو روزنامه هست واسه منم بخوند ولی نه خبر گوزفنده جانی میگه اینجا یه عکس از یه یاروی آلمانیه که تو آلمان به قدرت رسیده. ایه سیبیل مزخرف خندداری هم داره. مامی میگه بده منم سیبیل مسخرش رو ببینم. جانی خب عکسو رو بهش نشون میده و بعدش مامی میگه ایه چه سیبیل مسخری. جانی میگه جدای سیبیل مسخرش یاروی خوشبر به نظر میاد. موفق باشه ایشالله. میدونه سیه روی آلمانی الان تو کان ما را زندگی میکنه بیرون جاده لینان مامی میگه که پس ایرلند نباید همچین هم جای بدی باشه وقتی آلمانی دارن میان اینجا زندگی میکنن جانی میگه که معلوم همه میخوام بیان ایرلند آخه مردم ایرلند خیلی مهربون ترن اصلا مگه ما به همین معروف نیستیم ببین مامی من روز سرتان گرفتن این پسره شرط می‌بندم بعد جانی واس خودش سر تکن میده و بر می سر وقت روزنامش برمیگردیم به مغازه. مقداری تخم مرغ روی پیشخون روی هم انباشته شده و مشخص تخم مرغ فروشه امروز تخم مرغ داشته کیت میگه دریق از یک کلمه دریق از یک کلمه دریق از یک کلمه دریق از یک کلمه دریق از یک کلمه آیلی میگه چند دفعه میخوای تکرار کنی اینو کیت میگه یعنی yani حق ندارم بگم دریق از یک کلمه حق ندارم بابته رفتن بیلی ترس برم داره آیلین آه میکشه. حداقل حت حتی می میتونست نامه بنویسه که داره می را که ما مجبور نشیم از جانی پتین عتیقه بشنویم کیت میگه میترسم جانی چیزی از بیلی بدونه و به ما نگفته باشه آیلی میگه آخه مگه میشه اون چیزی بدونه و به کسی نگه یا قاطر گوزیده باشم تو دلش نگه نمیداره خیال تخت اگه مکشاری راست گفته باشه که فیلم برداری تموم شده خیلی طول نمیکشه که بیلی برگرده خونه شاید موندن که جای دیدنی رو ببینم شاید هم گاوی چیزی به چشم بیلی خورد و زمان یادش رد. کیت میگه تماشو کردن گاو مگه چقدر طول میکشه یه هفته آیلین میگه اونطور که یادمه تو خودت عادت داشتی با سنگا اختراع کنی کیت میگه این مال وقتیه که ناراحتی اعصاب داشتم خودت خوب میدونی آیلین قرار گذاشتیم دیگه هیچ‌وقت این قضیه رو وسط نکش آیلین میگه راست میگی ببخشید نه که نگران بودم یا اون سنگا لیس خوردن اومدن تو ذهنم کیت میگه دیک به دیک میگه سیا. چند روز پیش 20 یالا مالو داشتیم همه‌شون غیب شدن چطوری دخل و خرج کنیم وقتی قبل از اینکه مشتری ببینه تموم شده آیلی میگه وای کیت سر یالامالو اختیارم دست خودم نیست کیت میگه سراب نباتای نعنایی هم همینو گفتی میدونم وقتی دوست دوستانی همش بلمونیا ولی دیگه باید کمش کردی حالا یه بس فریپل فراپل تو راهه بهت گفته باشم دست بهشون بزنی کارت زاره میبینم که تخمور فروشه اومده آ일리 میگه آره از وقتی هلن دستپاچ چلوفتی براش کار نمیکنه تو خمرقاش برکت میکنه. گیت میگه کلا نمی‌فهمم واسه چی هلن اون نگاه آیلی آ일리 میگه گمونم ازش می‌ترسه یا می‌ترسه یا عاشقشه. گیت میگه فکر کنم بیلی هم عاشق هلن. جانی وارت میشه. داره با ifade راه میره. جانی میگه یه خبر دارم از مسافرای آیینیش مور. اما نگاش میدارم برای سومین خبر. کیت با نگرانی میگه ایلی حالش خوبه جانی پاتین، اولینو بگو لطفا جانی میگه خب اگه قرار شما بگین کدوم خبر خبر اوله کدوم خبر خبر دومه گمونم بهتر باشه من پاتشنم و ور بکشم برم پی کارم آیلی میگه به هر ترتیبی دوستداری بگو جانی اصلا مگه تو همون آدمی نیستی که ترتیب خبرها رو بهتر از همه میدونه هستی یا نیستی؟ جانی میگه همون آدمم. هم. میبینم که یه عالم تخم مرغ داریم خب اول این خبرم تو کریه گوسبند پیدا شده که بیگوشه آیلین میگه آه چه خبر محرکهی جانی میگه ازم نپرسین این چجوری میشته چون نمیدونم نه برام مهمه اما خبر دوم گربه پتی برنام و قاز جک الری مرده پیدا شدن تو شهر کسی نشینده که کسی چیزی دیده باشه ولی ما میتونیم دو دو تا چارتا کنیم و بگیریم. البته نباید با صدای بلند گفت چون جکلری بدجوری خشنه کیت میگه که خبر غمنگیه به نظر میرسه دشمنی داره شروع میشه جانی میگه دشمنی داره شروع میشه و تموم نمیشه تا وقتی یکیشون یا هر دوشون بمیره خب خانم من 6 تا تخم مرغ برمیدارم چون از دو هفته پیش به مادرم قول دادم براش املت درست کنم آیلین میگه جانی پاتین سومین خبرت چی بود جانی میگه من دارم از مادرم حرف میزنم و هیچ حالشو نمیپرسه اینو میگن آخر نزاکت کیت میگه خب حال مادرت چطوره جانی پتی جانی میگه علا رغم تمام تلاشایی من خوبه آیلین میگه هنوزم تصمیم داری مادرتو با مشروب بکشی؟ جانی میگه تصمیم که دورم اما بیفایده است اون لکاته با اون همه عرق خوریش کلی خرج دستم گذاشته خیال مردنم نداره ولا تخم مرامو بردارم برم دیگه کیت میگه سومی سومین خبر چی بود جانی پاتی جانی میگه ها خبر هم داش یادم میرفت خبر سومم اینه که بابی قایقش رو از آب کشیده و مسافرای ماجراجوی جونش رو پیاده کرده یا بهتره بگم دو تا از مسافرای جونش هلن و بارتلی هیچ خبر و اثری از بیلی چولاقه نیست حالا برم بدم بیبی بابی رو واسه سنگایی که به کلم زده دستگیر کنن بابت تخماروها ممنونم جانی بعد از گفتن خبراش خارج میشه کیت غمگین دستی به کهنه آویزون از دیوار میکشه بعد پشت میز میشینه حالا هر دو خواهر غمگین و نگرانن و کیت میگه که پسره از دستمون رفت آیلین پسر از دستمون رفت من با گوشت و پوستم حس میکنم از همون درک رفت میدونستم. بلیچلاغه مرده. آیلی میگه مگه پنج بار دکتر خاطرمون رو جمع نکرد که بلیچلااقه هیچ چیش نیست. کیت میگه اون حرفا واسه این بود که ما قصه نخوریم خبر درست همیشه پیش جانی پاتینه. آیلی میگه یا خدا اون بیبی بابیه که داره میاد سمت ما کیت میگه قیافش دمغ آیین. آیلی, آیلی میگه دماغ کلاهش هم از سرش برداشته. بابی کلاه در دست وارد میشه. آیلین، کیت، میشه همین الان یه دقیقه پشتینین آروم بگیرین؟ براتون یه خبری دارم. من بچه های مککرمیک برگردوندم خونه. قرار بود پود بیلی شما رو هم برگردونم ولی نتونستم. چون که... چون که اون بردن آمریکا واسه تس بازیگری. آزمایش بازیگری توی فیلمی که میخوان درباره یه دهاتی چلاق بسازن یا گمونم نکنم کل فیلم درباره یا روی چلاق باشه حال نقش خوبیه میفهمید؟ هرچند تو دنیا چیزایی مهمتری از که نقش خوب تو هالیوود بود هست کنار خانواده و رفقه بودن مهمتره من سعی کردم اینو حالیه بیلی چلاقه کنم ولی گوشش بدهکار نبود کشتیشون همین امروز صبح را افتاد بیلی نامه داد که برسونم به شما گف کم کم واسه دو سه ماهی میره اونورا همین دیگه میبینمتون بعد بیبی بابی میره کیت نامه رو باز میکنه و از روی نامه میخونه عمه های عزیزم میتونین حدس بزنین چی شده داریم میریم هالیوود برای تست آزمایشی به خاطر فیلمی که دارم میسازن و اگه از ریخت و قیافه ای من خوششون بیاد با هم قرارداد میبندم ولی اگه این همون موفقیت بزرگی باشه که منتظرش بودم ممکنه فقط همین دو ماه بتونم باتون با در ارتباط باشم. پس اگه بعد تابستون دیگه خبری ازم نرسید نگرانم نشین. معنیش فقط اینه که من خوشحالم و سرحال و دارم زندگیمو تو آمریکا سر و سامون میدم. از خودم یه چیزی میسازم که مایه افتخار شما و بابا مامان باشه. سلام منو به همه توی جزیره برسونین غیر از جانی پتین و مراقب خودتون باشید. آیلین و کیت شما دنیا رو برای من فشنگ کردی شاید دنیا رو برای من قشنگ کردی کیت میگه این که نوشته شبیه فشنگه اون به همون پشت کرد آیلی آیلی میگه اونم وقتی ما دل تو دلمون نبود از نگرانی امیدوارم پاش به آمریکا نرسیده باشه امیدوارم کشتیشون قرق بشه کیت میگه امیدوارم اونم غرق بشه. اینه پدر و مادرش. آیلین میگه زیادی بهش بیرحمی نمیکنیم. کیت میگه زیادی بیرحمیم واسه اینکه خیلی ناراحتی آیلین میگه بازم یه روزی بیلی رو میبینیم. نمیبینیم کیت. کیت میگه میترسم احتمال اینکه که جیمفینگان رو تو سومه ببینم بیشتر از این باشه که دوباره بیلی رو ببینم. مطمئن نیستم بخوام بازم بیلی رو ببینم. آیلین میگه منم مطمئن نیستم بخوام بازم بیلی چلاقه رو ببینم. من میخوام بازم بیلی چلاقه رو ببینم. کیت میگه منم میخوام بازم بیلی چلاقه رو ببینم. چهار ماه بعد توی همون مغازه چند چندتای اعلامیه برای نمایش فیلم مردی از آران در تالار کلیسا روی دیواره های مغازه آویزون شده جعبه شیرینی و یه سنگ روی پیشخون دیده میشه بارتلی کنارشون ایستاده و منتظر کیته هلن با چندتا تخم مرغ وارد میشه و اونا رو روی پیشخون میچینه بارتلی میگه فکر میکردم تخم مرغ آوردن بردن کارمون یارو تخم مرغ فروشه است. هلن میگه کارمون یارو تخم مرغ فروشه بود ولی امروز با لگت زدم تو قلم پاش اونم انتظارش رو نداشت. مردک تهمت زده که قاز و گربه رو من کشتم. بارتلی میگه خب باقیان هم هلن کشته. میپرسه چقدر پول گرفتی؟ هلن میگه هشت شیلینگ واسه قازه ده شیلینگ واسه گربهه. بارتلی میگه خب چرا گربهه رو بیشتر حساب کردی؟ هلیم میگه خب باید یه پولی به دارسی میدادم که تبرش رو به هم قرض بده. قازه رو فقط باید محکم میزدم ولی برای کندن کلکی گربهه به چیزی بیشتر از یه ضربه محکم نیاز داشتن. بارتلی میگه خب با چوب میکوبیدی تو سر گربهه. پول کرایه تبرم میزاشتی جیبت. هلیم میگه خب میخواستم هرفهی عمل کنم بارتلی. چوب واسه بچه خینگاست. من مگس های ریغونم با چوب نمیکشم. بارتلی میگه پس با چی میکشی؟ هلن میگه با چیزی نمیکشم. کشم. کشتن چیزی گیرم نمیاد. بارتلی میگه یه روزی دختر جیمفینگان دوازده تا کرم کشت. سوزم فرو کرد تو چشمشون. هلم میگه بفرمام. اینا کارهای تازه کارها بعد هلن نگاه پیشخان میکنه و سنگ رو می میگه این سنگ اینجا چکار میکنه؟ بارتلی میگه از درک اومدم تو مچ خانم آزبورن رو گرفتم که داشت با این سنگ حرف میزد. میگفت چطوری سنگ؟ بعدم میذاشش شش گوشش انگار که جوابش میده. بعدم ازش میپرسید میدونی بیلی چلاقه عتیقه داره تو آمریکا چیکار میکنه؟ هلم میگه اون وقت سنگه چی گفت؟ بارتلی میگه سنگه چی نگفت هلم؟ که حرف نمیزنه. هلم میگه. باید به عمه بگن که مرده یا داره میمیره تا منتظر نامه که هیچ وقت نمیاد نمونن. اون دوتا تو کل آینشمان تنها کسایی هن که خبر ندارن بارتلی میگه چه فایده ای داره بهشون خبر بدی اینجوری حداقل امیدوارن زنده باشه بلکم معجزه شده باشه و بیلی اقه نمرده باشه شایدم اشتباه گفتن که فقط سه ماه زنده است علم میگه امیدوارم که توی هالیوود مرده باشه چون جایی رو اشغال کرده که در اصل مالی یه دختر خوشگل بود بارتلی میگه دختر خوشگل تو هالیوود پره اونجا واسه دهاتی چلاقه که لح لح میزنن هلن میگه چرا از بیلی چلاق دفاع میکنی؟ مگه قرار نبود براد یالا مالو بفرسته فیلن که یه لیس هم نصیبت نشده بارتلی میگه خب شاید مرده که نتونسته بفرسته هلن جواب میده تو هر بهونه ای رو قبول میکنی ریقو. بارتلی میگه قبول کن مردن حداقل واسه نفرستادن به بهونه خوبیه. هلن میگه وای تو چقدر دلرحمی. بعضی وقتا خجالت میکشم که با من قوم قموخیشی. بارتلی میگه دلرحمی من آزاری به کسی نرسونده. هلن بازوشو نیشگون میگیر و میگه این چی؟ بارتلی با درد میگه نه. هلن محکمتر دستاشو میکشه. بارتلی بازم میگه نه. هلن یه تخم مرغ بر می و میکوبه به پیشونیش. بارتلی آه میکشه. بهتره تا کار دیگه ای نکردی بگم آره. هلن میگه باید سر همون اولی میگفتی. مخ تو به کار بنداز. البته منم واقعا خوشم میاد تو سر آدما تخم مر بشکرم ها. بارتلی میگه ولی وقتی بیبی بی بابی زد زیر قولش و ماچت نکرد رو کلش تخم مر نشکستی. زد زیرش چون تو شبیه هایی. هلن میگه زد زیرش چون دلباپس بیلی چلاقه بود. تو هم حواست باشه بهم به گفتی ها. پسری که هنوز سحمر داره از پکوپوزش که اینقدر پررو نمیشه که. بارتلی میگه یه روزی میاد که هر ایرلندی در برابر کسایی که بهش زور میگن مقاومت کنه. هلن میگه میخوای انگلیس علیه ایرلند بازی کنی؟ بارتلی میگه این بازی رو بلد نیست. هلن بهش میگه اینجا وایساو چشاتو ببن. بارتلی هم همین کارو میکنه. هلن ادامه میده تو ایرلندی منم انگلیس. هلن تخم مرغ روی پیشخون و اولی رو روی پیشونی بارتلی میشکنه بارتلی چشماشو باز میکنه و ناراحت هلن رو نگاه میکنه زرده تخم مرگ از روی صورت شره میکنه هلن دومی و سومی رو هم روی پیشونیش میشکنه بارتلی میگه اصلا کار خوبی نکردی هلن هلن میگه داشتم درسی درباره تاریخ ایرلند بهت میدادم بارتلی میگه تازه موهامو شسته بودم بهترین جاکت همو هم تخم مرغی کردی میخواستم فردا موقعی نمایش فیلم بپوشمش ولی تر زدی به همه چی هلن میگه ملت ایرلند تا بیاد دوباره واسه خودش کشوری داشته باشه بیشتر از اینا تلفات داده بیشتر از موهای تخم مارغی شده تو فکرشم فردا چند تا تخم مرغ به فیلم پرت کنم گود بابای مردی از آران میشد یه فیلم دیگه ساخته باشم به اسم دلبر آران نه یه چیز عتیقه که درباره در باری ماهی گیریه یه ات حالا اگه این سلیتا اومد پول تخم مرغامو بده. آهای خانومی که با سنگا حرف می‌زنی. من که نمی‌تونم جوونیمو پای این گوزوی خسیص تلف کنم. بارتلی پول تخم مرغا رو بگیر سر راه بده به تخم مرغ فروشه. هلن بعد گفتن این جمله‌ها از فروشگاه میره بیرون. بارتلی که تخم مرغ روی سر و صورتشه میگه میگیرم عوض یه گوه بیخواستیت بد ترکیب زلیتهی تو هلن دوباره سرک میکشه داخل و میگه زمنن نظر بابت اون چارت که برداشتم رو رو سرت شکستم چیزی ازت کم کنه و دوباره هلن میره بیرون کیت آروم از اتاق پشتی وارد میشه حفاظش پرته بعد از لحظهی متوجه بارتلی میشه هی بارتلی سلام چی بیارم برات؟ بارتلی متحییر و با مکس میگه که شما رفته بودین اون پشت واسه فریپل فراپل بیارین خانم کیت لحظه با خودش فکر میکنه و بعد آروم به اتاق پشتی بر میگرده. بارتلی بلند و عصبانی ناله ای میکنه و سرشو میذاره رو روی پیشخون بعد کیت برمیگرده میگرده و سنگشو بر میداره و دوباره میره به اتاق پشتی بارتلی چکش چوبی رو بر داره و باهاش همه تخم مرقای روی پیشخون می‌شکنه، میشکنه. خارج میشه و در و محکم میکوبه. صدای خسخس کردن سینه بیلی رو میشنبیم. وقتی نور روش میتابه تنها توی اتاق فقیرانی هتلی در هالیوود روی سندلی نشسته و میدرزه. تمام مدت صدای خسخس آرومش میاد. مامان میترسم بیشتر از این زنده نمونم. مامان من که مال اون جزیره لمیزره هم. یعنی اینجا زاری بنشیهایی که واسم مویه میکنن به گوشم نمیرسه زادگاه عقیمم. آره، ولی بهش مینازم و سرمو بالا میگیرم. با این حال به تو پشت کردم تا تنها بمیرم. توی اتاق اجاره یه دلاری بدون مادری که عرق سردمو پاک کنه. بدون پدری که بابت مرگم از خدا شکایت کنه. بی دلبرکی که پای نعشم بی حرکت اش بریزه. نعشی که شرف داشت و تسلیم نشد. یه ایرلندی با دل پاک، ذهن پاک و روح پاک که یه قرن نکبت و نیاز و فشار و یه عمر پریشونی نتونست خوردش کنه. نه. <تصفيق> ولی یه تن لهیده داره با ریاهای داغون و راستشو بخوای یه دل چکسته دلشو دختری شکست که هیچ وقت احساس واقعیشو نفهمید و حالا دیگه خیالت راحت هیچ وقت نمیفهمه. مامان چی داری به هم میگی؟ میدونم باید باسش نامه بنویسم و احساسم و بهش حالی کنم آه ولی دیر وقت مامان فردا که دیر نیست بلند میشه لخ, لخ کنان به طرف آینهی سمت چپ میره و آروم ترانه پسر موکوتاه رو میخونه این ترانه داستان یه جوان انقلابی ایرلندیه که به جایگاه اعتراف کلیسا میره و به شرکت در حمله ای به انگلیسی ها اعتراف میکنه در اون دوران موکوتاه لقب انقلابیون ایرلند بود و در برابر اشراف کلاهگیس پسر انگلیسی قرار می گرفت بدرود پدر، نیز مادرم و خواهرم مری که هیچ از تو دانم. و بدرودی با برادرم که به تمامی تنهاست برادری که دارد دشتنش را با سنگ تیز می کند. تلو تلو می و بدحال آروم خودشو رو به رخت خوابش می کشونه. خس خس کنان به عکس روی گنج نگاه میکنه. مامان، بهش چه شکلیه؟ شنیدم جایی قشنگیه حتی قشنگتر از ایرلند راستی راستی دارم با خودم فکر میکنم اصلا پسرای و به بهش راه میدن یا نه جوابش معلومه ما فقط اونجا رو زشت میکنیم عکسو برمیگردن روی گنج در ایرلند کهن بود که این مرد جوان مرد پیکرش در ایرلند کهن آرمیده است مردمان نیک را از زندگی نصیبی نیست، باشد که خداوند لطفش را بر این پسر موکوتا نصار کنند. مامان، من امشب بعد سینم خیلی خرابه. گمونم باید بخوابم تا بهترشم، شم، چون فردا تو راه آهن کلی کار سخت دارم که باید انجام بدم. چی بود مامان؟ دعامو میگم. دارم فراموش میکنم چیزایی که یادم دادی. یه سلیب روی سینش میکشه و بعد میگه دعا میکنم خدا روحم رو حفظ کنه. ولی اگه دیگه بیدار نشم دعا میکنم به درگاهش. دعا میکنم به درگاهش. دل با پس نه شما من, من فقط به خواب میرم. فقط خواب. دراز میکشه خسقس خس دردناک سینش بدتر و بدتر میشه تا اینکه با نفس نفس زدن عذاب ناگهان خاتمه پیدا میکنن چشماش بسته میشن سرش به یه طرف مییفته و بی حرکت اونجا دراز میکشه تالار کلیسا نیمه تاریکه تقریبا کل پرسوناج نامحیشنابه اینجا حضور دارن بابی، مامی، بوتری به دست، جانی، هلن، بارتلی، آیلین و کیت نشستند. همه زل زدن به فیلم مردی از آران که داره پخش میشه اواخر فیلمه و موسیقی یا خیلی ضعیفه یا اصلاً شنیده نمیشه اون جایی که دیالوگ های مقداری بی ربط میشه دارن درباره فیلم حرف میزنن مامی میگه داره چی میشه؟ بارکلی میگه مگه نمیرفتن کوسه بگیرن خانم از اون کوسه بزرگا. مامی میگه رفتن کوسه بگیرن؟ جانی میگه تو و بنوش. بابی میگه امیدوارم تو اون بطری آب باشه جانی پات مایک. جانی میگه معلومه که هست. زیر لبش میگه که مامی نفسات تو کنار بیبی بابی نده بیرون. بابی میگه خانم جانی نباخرم از پسندازیتون چیزی دزیده؟ جانی میگه من هیچ وقت نمیدازم. قرض کوتاه مدت میگیرم. مامی میگه این عوضی از سال 1914 همش داره پولامو قرض کوتاه مدت میگیره. جانی میگه خب تعریف من از کوتاه مدت این دیگه. کیت میگه ماهی گندهیه. هلن میگه این کوسه است. بعد حرف زدن با سنگا دیگه شکل کوسم یادت رفته. بارتلی میگه معمولا دوروبر آمریکا میشه کوسه گیرابورد خانم. گله گله کوسه. بعضی وقتا انقدر نزدیک ساحل میشن که راحت میشه حتی بدون تلسکوپ هم دیدشون هلن میگه وای تلسکوپ خدایا بارتلی میگه دوروبر ایرلند خیلی کم میشه کوسه گیرابرد این اولین کوسه یه که من این دوروبر دیدم جانی میگه پس ایرلند همچینام جای بدی نیست اگه کوسه هم دلشون میخواد بیانی ایرلند بارتلی میگه بیبی بابی چی شد که واسه سنگ زدن تو زیاد نگهت نداشتن تو زندون. بابی میگه پاسمونه که قضیه رو شنید فقط خندید گفت دفعه بعد با آجور بزن. سنگ پروندن و بی شد. جانی میگه پاسمونه حوض کرده از اداره پلیس بندازنش بیرون یا قلاً پشت شایعات ناجوری را بیفته بابی میگه هممون میدونیم اگه را بیفته کار کی بوده. جانی میگه خبر داشین پاسمونه زنشو با سیخ بخاریکوتک میزنه؟ هلن میگه تو به این میگی خبر؟ اگه این کارو نکنه تو اداره پلیس که بهش کار نمیدن کیت میگه در از یک کلمه در از یک کلمه از طرف اون الی میگه اصلا قرار نیست این کوسه رو بگیرن گوه بگیرن که یه ساعت مشغول همینن اگه من تو فیلم بودم این کارو کوفتی انقدر طول نمیکشید حسابی لتو پارش میکردم بعدش دیگه میتونستیم بریم سر خونه زندگیمون بارتی میگه لابود با تبر ریدارسی هلن زیر لب و با دندونای کلید شده میگه ببر صداتو حرف تبرزدی نزدی ها بارتلی میگه سلاخی کردن کوسه سخت از گربه نیست جانی گوشاش چیز میشه میگه این چی بود که جانی پاتینشنی هلن موهای بارتلی رو چنگ میزنه و سرشو برمیگردونه همزمان جانی تو دفتر جی بی چیز زیاد داشت میکنه بابی خیلی آروم میگه که هلن بارتلی رو ول کن همین الان هلن میگه تو حرف نزن بیبی بی بابی بنت توی که سریعه ماچ میزنی زیر قلش آدمش هستی با من بیای تو گود بابی میگه فکر نکنم دلم بخواد هلن میگه پس درتو تو بذار هلن با خوشونت بارتلی رو رها میکنه جانی میگه اینم یه یاد داشته یه شق گوسمند با این خبر گیرم میاد یا از پتی برنان یا از جکلری هلن میگه که هوی عوضی اگه این خبر قبل از اینکه که منو تمام من و تمام مکمال تصفیه کنن پخشه شققه گوشتو با گردن شکستت میخوری کیت میگه بارتلی باز تازگی خودتو تو چاله چیزی انداختی بارتلی میگه وای خانوم وقتی افتادم تو اون چاله کوفتی هفت سالم بود هفت سال همیشه باید این قضیه رو بکشیم وسط هلم میگه که هنوز این کوسه کوفتی رو نگرفتن چقدر سخته مگه و یه تخمه م به طرف پرده پرتاب میکنه. بابی میگه که هلن بس دیگه اون پنج تخم مرغی که به زن بیچاره توی فیلم پرت کردی بس نبود؟ هلن میگه کمم بود. حتی یه بارم نخورد توی صورتش. سلیته همش تکون میخوره. مامی میگه که چرا دست از سر این کوسه بیچاره بر نمی دارن؟ به کسی کاری نداره که. جانی میگه اگه دست بردارن دیگه چه قصه ای میشه؟ آدم میخواد کوسه مرده ببینه خب. بابی میگه کوسه مرده یا کوسه بیگوش جانی میگه کوسه مرده آره کوسه ای که یکی از اون اجوزه ها رو توی آنتریم ماچ کرده بابی میگه هی تو که حرف اجوزار میزنی چلاق میخوای جانی میگه خب تو هم پریدی وسط بحث من و مادرم درباره کوسه بعد رو به مامیش میگه که چی شد تو یهو یه عاشق کوسه ها شدی مگه بابا رو کوسه نخورد مامی میگه چرا خورد ولی عیسی مسیح میگه آدم باید ببخشه و فراموش کنه بارتلی میگه که اولا که کوسه ها گوش ندارن بعد همه بهش نگاه میکنن جانی میگه هی احمق از بحث گوش دیگه رد شدیم الان بحث ایسا مسیحه که گفته باید بخشید هلن میگه من همیشه پونتیوس پیلاتس رو به ایسا مسیح ترجیح دادم ایسا همیشه از خودش متشکره پونتیوس پیلاتس حاکم شهری بود که مسیح توش محاکم و محکوم شد واردلی میگه که یه بار عیسی هزار تا خوک رو میرونه تو دریا. شما هم شنیدین؟ ها بیشترشون غرق شدن. تو مدرسه همیشه این قصه رو لاپوشونی میکنن. کیت میگه که نمیدونستم عیسی روندن هم بلد بوده. هلن میگه خانم خول شدی؟ کیت میگه خول نشدم. هلن میگه شدی. یه دقیقه پیش سنگت داشت به بهم میگفت. کیت میگه سنگم چی گفت؟ هلن میگه اینو داشته باش. واردلی. سنگم چی گفت؟ جانی میگه معلوم کیت بیچاره خول شده 16 سال پسره رو بزرگ کرد اون وقت به جان که دستش بشه ترجیح داد سلش رو برداره بره حالی بود و اونجا بمیره آیلین از جا میپره و دست روی سر برمیگرده سمت جانی بیبی بابی هم همینطور آیلین مات و مپوت میگه چی؟ چی؟ جانی میگه که گند زدم بابی با خشونت جانی رو میگیره و بلندش میکنه جانی تقلا میکنه اما خودشو نمیبازه میگه اینا حق ندارن از پسر مردشون خبر داشته باشن اون از پشت بهشون خنجر زد هم بی خدافزی رفت بابی میگه که نمیتونی حرف دهنت نگه داری نه جانی میگه جانی پتیم مای کی تا حالا رازدار بوده بابی میگه حالا بیرون حالیت میکنم ببینم راز کتک هم نگه میداری یا نه. جانی میگه دارین مامی منو میترسونی. مامی میگه هیچ ام نمیترسم. هرچقدر دلت میخواد کتکش بزن پسرم. جانی میگه سلیته اون آخرین املتی بود که تو خونه ای من خوردی. مامی میگه حالا املت هویچ که حسرت نداره. جانی میگه هیچ فقشه هم تجربه جدید کردنو نداری. جانی با داد و فریاد از صحنه خارج میشه آیلین که هنوز منگز مامی پرسه پسرتون چی داشت میگفتم خانو. مامی میگه میگم بیلی چلاقه شما سل داره آیلین یا شایدم داشته چهار ماه پیش بهش گفته بودن سه ماه بیشتر زنده نمیمونه بارتلی میگه الان یه ماهه که مورد خانم. یه تفریق ساده است آیلین میگه اینم از اون شایعات مزخرف جانی پتی مایک من که هیچجوره باور نمیکنم مامی میگه آره اگه شایعه یه پسر من بود که پش이지 ارزش نداشت ولی این خبر بیبی بابی شب قبل سفر بیلی نامه دکتر مکشاری رو بهش نشون داده اینم معلومه که هیچجوره امکان نداشت بابی بیلی رو با خودش ببره مگه اینکه دلش سوخته باشه مگه زنش از سل نمرد آیلی میگه آره با درد و عذابم مرد و چه شبایی که بیلی رو نفرینش میکردم که چرا نامه نمیده ولی بدبخت اصلا چطوری میتونسته هلن میگه اونم از زیر دو متر خاک کار سختی فیلم که تموم میشه پرده سینما سفید میمونه پشتش نوری هست که حیبت بیلی رو روی پرده میندازه، که تنها کیت میبینه مامی در حالی که برای خودش چرخ میزنه میپرسه بالاخره کوسه رو گرفتن یا نه هلن میگه کوسه نبود که خانوم یا یارو درازی بود که رخت توسی تنش کرده بودن مامی میپرسه که از کجا میدونه هلن میگه این یارو همون یارویه که چند تا ماچ خرجش کردم تا قل بده تو فیلم بعدیش بازیم بده بعد زد زیر قولش منم با لگد زدم تو تخماش مامی میگه این همه علمشنگه واسه ی یارویی که رخت توسی پوشیده من که اصلا نمیفهمم. هلن و مامی خارج میشن بارتلی بلند میشه خیره به حیبت بیلی که تازه دیده آیلین گریان هنوز پشتش به حیبت کیت ملافعی رو که به عنوان پردهی سینما استفاده شده کنار میزنه و بیلی رو زنده و سرحال میبینه بیلی لبخند زنان میگه نمیخواستم تا فیلم تموم نشده مزاحمتون بشم آیلین برمیگرده. کیت سنگش رو میندازه و بیلی رو در آغوش میکشه. بارتلی میگه سلام بیلی چلاقه. تازه از آمریکا برگشتی؟ برام یالامالو گرفتی؟ بیلی میگه نه نه گرفتم بارتلی. فقط فریپل فراپل داشتم. یه بست شیرنی به سمت بارتلی پرتاب میکنه. بارتلی میگه ای جونم. اینم همونقدر حال میده. ممنونم بیلی چلاقه. کیت میگه که پس اصلا بودی ها. بیلی میگه نه فقط یه نامه از طرف دکتر نوشتم که بیبی بی بابی رو گول بزنم بعدش هم اون منو با قایقش ببره برای فیلم برداری. اگر نه هیچ مرگیم نبود. بارتلی میگه خیلی چلاق خفن باهوشی هستی بیلی. این ایده رو از قصه بیگلز به برونئو میرود یاد گرفتی. اونجاست که بیگلز به کنونبال گفت سرخک داره واسه اینکه نخورتش. بیلی میگه نه فکر خودم بود بارتلی. بارتلی میگه بابا تو از اونی که فکر میکردم زبلتری بیلی همه فکر میکردن تو رفتی و مردی هر خری اینجوری فکر میکرد حتی خود من آیلین میگه من اینجور فکر نمیکردم. بعضی بعضی‌ها فکر میکردن تو زدی به چاک چون نمیتونی ریخته کسایی که بزرگت کردن رو تحمل کنی بیلی میگه اما آیلین یه لحظه این نبود مگه واسه این بر نگشتم که نمیتونستم دوریتون رو تحمل کنم مگه یارو آمریکایی بهم نگفت نقش مال منه ولی من گفتم نه به درک که چقدر پول میدادن چون هالیوود اصلا جای من نیست جای من اینجاست کنار آدمایی که دوستشون دارم کیت بیلی رو می بوسه بارتلی میگه پس ایرلند همچینام جای بدی نیست حتی یه دهاتی چلاغ به هالیوود جواب رد داده که بیاد ایرلند بیلی میگه بارتلی راستش جواب رد دادن اصلا چیز عجیبی نیست با اون جمله‌های کثافتی که دادم براشون بخونم مثلا من که مال اون جزیره عقیمم یعنی اینجا زاریه بنشی هایی که واسه مویه میکنن به گوشم نمیرسه. رسه کپه گوه بعدم مجبورم کردن اون آهنگ کسافت پسرمو رو بخونه کیت میگه من میرم خونه یه دستی به سر روی اتاقت بکشم بیلی بارتلی میگه خانم سنگتون رو یادتون رفت نمیخوای تو راه باشی گپی بزنید کیت میگه دیگه نه بارتلی پسرم برگشته بعد کیت از صحنه خارج میش بیلی میگه یعنی دوباره شروع کرده با اون سنگ های کوفتی حرف میزنه بارتلی میگه آره شب و روز این کارو میکنه و همه بهش میخندن یکیش خود من بیلی میگه آدم نباید به بدبختی دیگران بخنده بارتلی. بارتلی میگه اینجا شو باهات مخالفم ولی چون برام فیری پر فراپ آوردی باهات بحث میکنه میشه بعدا هم بگی آمریکا چقدر مرککه بوده بیلی میگه میگم بارتلی بارتلی میگه اونجا که بودی تلسکوپ هم دیدی؟ بیلی میگه که ندیده. بارتلی آه میکشه. به هر حال خوشحالم نمردی بیلی چلاقه. بعد بارتلی هم از کلیسا خارج میشه. آیلین میزنه تو سر بیلی. میگه که میمردی مدت یه نامه مینوشتی؟ دریغ از یک کلمه کوفتی بیلی میگه خیلی گرفتار بودم همه. آیلی میگه اونقدر گرفتار بودی که واسه ما نمیتونه سینامه بنویسی ولی واسه اون پسری خل میتونه سیفییک فراپل بخری فقط میخواین نمایش بدی آدم حسابی هستی بیلی بیلی میگه خریدن اون یه دقیقه وقت میبره خب چه مقایسه ایه؟ آیلی میگه خودت هم میدونی اشتباه کردی حرفای قوم به سوم بزند انتظار نداشته باش مثل اون یکی زود ببخشم و یادم بره اون بخشیده چون از دوریتو تقریبا دیوونه شده بود از دست من به این سادگی خلاص نمیشه آیلین خارج میشه بیلی سرشو پایین انداخت آیلین باز سرک میکشه لابد واسه اسرونه که سیب زمینی هم میخوای بیلی سر تکون میده که یعنی آره آیلین دوباره خارج میشه بیلی به ملافه نزدیک میشه و آروم اونو نوازش میکنه امیناً تو فكره بابی آروم از سمت راست وارد میشه بیلی میگه که من یه توضیح بهت بدهکارم بابی ببین من آرزوم بود تا تاابت تو آمریکا گم و گوشم. اگه منو برای فیلم میخواستن همین کارم می‌کردن ولی نخواستن یه جوونک موبور از فلوریدا رو جای من قبول کردن پسر اصلا چلاغ نبود ولی آمریکایی گفت بهتر یه یاروی سالم بیاریم که بتونه نقش چلاغ رو بازی کنه تا یه یاروی چلاغی که اصلا نمیتونه بازی کنه تازه اینا رو بی گفت خودم فکر می‌کنم بازیگریم خیلی خوبه ها تو هتل تمرین کردم همش هم آخرش رفت واسه هیچو پوچ. خلاصه ول کردم. مجبور بودم ول کنم. بعدم یاد از اینجا میرفتم بیبی ای بابی. هر طور شده. اینجا که بودم بیشتر وقتا فکر می‌کردم برم خودمو غرق کنم. فقط واسه اینکه این, این مسخره شدن رو تموم بشه. این زندگی که هیچ چیزی نیست جز لخ لخ رفتن پیش دکتر و رفتم کتابای عتیقه و یه راهی پیدا کردم واسه اینکه به یه روز دیگه هم تر بزنم بچه یتیم دهاتی، چلاق دهاتی، فقط همین اینجا کلی آدم هستن که مثل من چلاقن فقط ایبه تو ظاهرشون نیست ولی تو جزوشون نیستی بیبی بی بابی تو قلب مهربونی داری گمونم واسه همینم تونستم با اون نام گولت بزنم. ولی همون موقعم هم ناراحت شدم که گولت زدم الانم ناراحتم مخصوصا این که با چیزی گولت زدم که زنت به خاطرش مرده بود ولی بعد فکر کردم اگه بخوای بین گول خوردن خودتو خودکشی کردن من یکیو انتخاب میکردی همون کارو میکردی نه منو میبردی اشتباه میکردم بیبی بابی اشتباه میکردم بابی آروم به طرف بیلی میره مقابلش وای میسه میذاره لوله سربیه درازی از تو از سینش بیفته تو دستش بعد میگه آره اشتباه می لوله رو بالا میبره بیلی میگه نه بابی نه لوله که پایین میاد بیلی صورتش رو میپوشونه صدای جیغای دردناک بیلی و لوله کل صحنه رو پر میکن دوباره برمی گردیم به مغازه آخر شب و دکتر داره به چهره کبود و خونی بیلی که با بی کتکش زده رسیدگی میکنه. کیت پای پیش خونه. آیلین دم دره و داره بیرون رو نگاه می کیت میگه بیلی برگشته. بیبی بی بابی دستگیر شده و دختر جیمی فینگان هم عضو سومه شده. این آخری از همه قافل گیر کننده تر. بیلی میگه واسه چی دختر جین فینگان نباید راهبه بشه این که میگن خرابه همش شایعه است دکتر میگه نه واقعا خرابه حرف منو قبول کن بیلی میگه آخه از اینکه پشت کسی حرف بزنم خوشم نمیاد مگه پشت سر من اونقدر حرف نزدن که واسه کل زندگیم بس باشه اما ها فکر کنم دکتر لیوان چای دلش بخواد میرید براش بیارید آیلین میگه می ما رو بفرسی پینو خدسیا خب اگه همچین خیالی داری بگو بیلی به نشانه تایید سرتکن میده میگه میخوام بفرستمتون دنبال نخدسی ها آیلین و کیت یه لحظه بهش زول میزنن و بعدش هم دوتایی بیرون میرن بیلی رو به دکتر میکنه دکتر میشه یه چیزی رو به من بگین؟ از ننه بابای من چی یادتون میاد؟ وقتی آمریکا بودم خیلی بهشون فکر میکردم اگر رسیده بودن اونجا چیکار میکردن؟ اگه شبیه قرق شدن راهی آمریکا نبودن دکتر میگه اینطور میگن تا اونجایی که یادم آدم خیلی نازنین نبودن باباد یه دامالخمر بود که کم پیش میومد دواران اندازه بیلی میگه که مادرم شنیدم خوشگل بوده دکتر میگه نه اونم بچو ریزشت بود خوک ازش میترسی اما خب قیافش به کنار زن خوبی بود گرچه بوی بدی میداد که حال آدمو به هم میزن بیلی میگه میگه وقتی مادرم حامله بود پدرم کتکش زده واسه همینم من اینجوری از آب در اومدم دکتر میگه که بیلی بیماری باعث شده تو اینجوری بشی قضیه رو نکن بیلی صرفه و خسخس مختصری میکنه دکتر میگه که میبینم هنوز خسخس تو داری با صرفه خون که بالا نیا بیلی میگه خب یه ذر خون بیشتر روزا سله دکتر میگه باید معاینه کنم ولی شبیه سله. جانی که کنار در فالگوش وایساده آروم وارد میشه. یه قرص نون تو دستشه و زیر هر بغلش یه رونه گوسفند داره. جانی میگه که پس بالاخره سله. خدا ما رو نجات بده. من مطمئنم این سل از طرف خدا واسه بیلیچو لاقه نازل شده. چون وقتی سل نداشت ادعا کرد که داره و کاری کرد که مردم از خبرای جانی پاتین حساب نبره. ببینم بیلی چلقه؟ اما هات میدونن سل داری؟ بیلی میگه که نمیدونن و جانی هم نباید بهشون بگه. جانی میگه این وظیفه‌ایه که به اهدشه. بیلی میگه نمیشه یه بار تو زندگیت یه لطفی بکنیو بهشون نگی. جانی میگه یه بار تو زندگیم. واقعا باشه نمیگم. دکتر میگه جانی پتین شنیدم امروز سر نماینش فیلم به مامانت ویسکی دادی؟ جانی میگه نمیدونم اون ویسکی رو از کجا آورده بود میدونی اون خود شیطان است دکتر میگه الان مامانت کجاست جانی میگه خونه است پایین پله های اتاق من دراز کشیده دکتر میگه دراز کشیده که چیکار کنه جانی میگه افتاده از پله ها دیگه شما معمولا چهجوری میشه که پایین پله های کسی دراز میکشید دکتر میگه تو هم همینطوری ولش کردی جانی میگه وظیفه منه برم جمعش کنم من کاری واجبتری از جمع کردن مادرم دارم این دو رونه گسفند و نون رو میبینین امروز روز محشریه دکتر در حالی که گیج و متحیره وسایلش رو جمع میکنه و به بیلی میگه من میرم خونه جانی پتین مایک ببینم مادرش زندست یا مرده فردا بیا پیشم برای اون ماینه تکمیلی و دکتر بعد از گفتن این حرفا با عجله بیرون میره جانی میگه مامی من هیچم پای پله ها نیفتاده فقط من حوصله این یارو ندارم." بیلی میگه کار خوبی نکردی جانی پتین جانی میگه خودت هم همچین یاد طولایی نداری تو کار خوب کردن بیلی یکم خجالت میکشه میگه خب آره گمونم راست میگی دم درک وایستاده بودی شنیدی مکشاری در مادرم چی میگفت راست میگفت جانی شونه بالا میدازه بیلی با عصبانیت میگه چرا همیشه سر این قضیه دهنت محرمون میشه سر بقیه چیزا که همینطور راستی درباره دعوا سر قاضی آخرین رو شنیدی هممون فکر میکردیم جک الری و پت برنان سر قضیه سلاخی گربو قازشون همدیگه رو بکشن اما میدونی چی شده یه بچه امروز صبح اون رو دیده که تو کاهدونی داشتن با هم روبوسی می‌کردن بیلی میگه جانی پاتین موضوع عوض کرد جانی میگه خب موضوع چی بود آها ننه بابای قرق شدن اون شب رو ماسههای دریا دیدمشون چشم دوخته بودن تو تاریکی آب می‌قوریت اگه ندیده بودم گونی پرسنگ به دستاشون بستن و دارم میکشنش تو قایق هیچی از اون صحنه یادم نمیموند یه گونی کنافی قدیمی بود بعدش تو رو دادم به منو شروع کردم به پارو زدن سمت جایی عمیق آب بیلی میگه خب پس واقعا خودشون رو به خاطر من کشتن جانی میگه خودشون رو کشتن آره ولی نباس اون دلیلی که تو خیال می‌کنی تو فکر میکنی میخواستن از شر تو خلاصشن؟ نه یه هفته قبلش واسه اولین بار بهشون گفته بودن که اگه نتونن تو رو ببرن بیمارستان محلی و به دکتر نشون بدم میمیری درمونت صد پونددی ها خرج بر اونا همچین پولی رو از کجا باید می آوردن؟ میدونم که میدونی بیمه مرگشون خرج و درمونت شد و نجات پیدا کردی. اما میدونه سه قرارداد بیمشون رو همون روزی بسته بودن که من اونجا رو ماسه ها دیدمشون. پول بیمت بعد یه هفته پرداخت شد و یه ماه نشده خطر از سرت گذشت بیلی میگه پس همه چی به کنار اونا واقعا منو دوست داشتن امروز خبر خوش لازم داشتن ممنونم جانی پتیم جانی میگه قابلی نداشت بیلی چراقه خب میرم خونه پیش مادرم امیدوارم موقعی فوزولی کردن دکتر واقعا بیفته و بمیره اون وقت هر دومون امروز خبر خوش داریم بعد جانی خطاب به آیلین که بریشته تو مغازه میگه خانم بابت خبرای امروز هیچی به جانی پاتین نمیدین غیر از نخود سبز آیلین میگه یالامالوس هست جانی سبوک سنگین میکنه میگه نمیخوام جانی خارج میشه بیلی میگه "باید قبلا بهم هم میگفتی عمه حقیقت همیشه کمتر از اون که ازش میترسی وحشتناکه" آیلین اسرخاهی میکنه و آروم بیلی رو در آغوش میگیره آروم به صورت بیلی سیلی میزنه و خندون دور میشه هلن وارد میشه و میگه بیلی چلاغه با این وضعیت شبیه مشنگای عوضی شدی بیلی میگه گمونم راست میگی امه صدای کتریه که میشنوم اون پشت جوش اومده آیلین میگه چی؟ نه آها آها آره آره جوش اومده آیلین باز به اتاق پشتی میره بعد هلن زخم بیلی رو کنار میزنه تا زیرش رو ببینه هلن میگه خب بیلی آمریکا چطور بود اونجا دختری به خوشگلی من دیدی بیلی میگه یه دونم نبود هلن میگه که یا تقریبا به خوشگلی من بیلی میگه یه دونم نبود هلن میگه یا حتی یه صدمه خوشگلی من بیلی میگه حالا شاید یه تای. هلن محکم میزنه تو صورت بیلی بیلی میگه آخ, آخ آخ آخ بابا منظورم این بود که یه دونم نبود. نمیشه یه ذره از خشونتت کم کنی؟ نمیشه دختر مهربونی باشی؟ هلم میگه معلومه که میشه. ولی خب اون وقت از فرداش به سیخ میکشنم. راستی تخم و فروشم اخراجم کرد. بیلی میپرسه که چرا اخراج؟ هلم میگه شاید واسه خاطر وقت نشت ناسیم. شاید هم به خاطر اینکه کل تخم مرغاش شکستم شایدم به خاطر اینکه هر وقت دلم میخواست یه لگد سابی حسابی حالش می کردم یا شایدم ممس اینکه توف کردم تو صورت زنش ولی خب به اینا که نمیگن دلیل موجه هی hey, من هنوز لگد درست حسابی تو رو نزدم چون تو جای منو تو هالیوود گرفتی با اینکه به چهار تا کارگردان اونجا مچ دادم ولی تو خشک و خالی نقش و قاپیدی بیلی میگه اونجا یه کارگردان بیشتر نبود هللمکنن همه فیلم یه کارگردان دارن فکر کنم اکثر اونا پاده های استبل بودن که خوب ادای لحجه آمریکایی رو در می آوردن هلن میگه حرومزاده ها خب نمیشد گوشی رو دستم بدی بیلی میگه میخواستم ولی به نظر میرسید که خودتم داری حال میکنی هلن میگه واقعا راسته که آدم بوس خوب و از پادوی استبل میگیره راستش نزدیک بود به یکیشونم قرار بذارم اگه بوی گوه خوک نمیداد بیلی میپرسه که الان ما کسی قرار میذاره و هلن میگه که نه. بیلی میگه مسخر است. آمریکا که بودم فکر کردم اگه برنگردم دلم برای چی تنگ میشه؟ واسه منظره ها، گیواره سنگی، کوچه پسکوچه ها، سبزی اینجا، دریا، غذا ها، نه. واسه آدما دلم واسه عمه هام یه ذره تنگ میشد. اما واسه بیبی بابی، با اون لوله سربیش، و جانی پاتن با اون خبرای خونوکش یا پسرای مدرسه که بهم به میخندیدن یا دخترایی که اگه باشون حرف می‌زدم جیغ می‌زدن دلم واسه هیچ کدوم از اینا تغییری نمیشد فکرشو بکن اگه فردا آینشمان تو دریا فرو بره و همه غرق بشن هیچ آدم به خصوصی نیست که دل من واقعا براش تنگ شه هیچ کس غیر از تو هلن تو زندگی هر آدمی موقعی میرسه که مجبور میشه قلبشو بذاره کف دستش و واسه چیزی که میخواد زورشو بزنه. وگرنه اصلا واسه چیزی زنده است. این بود که داشتم فکر میکردم شاید یه وقتی اگه گرفتار نباشی به من حالیمه که ریخت و قیافم چنگی به دل نمیزنه ها ولی ممکنه پیش بیاد بخوای دم یه قروبی چیزی با من بریم بیرون قدم زدم. مثلا تو یکی دو هفته آینده. هلن میگه واسه چی باید بخوام با یه پسر چلاق برم قدم زدم؟ چون اینکه قدم زدن نیست لخ لخ کردن تو که نمیتونی قدم بزنی واسه چی باید بریم لخ لخ کنیم بیلی میگه واسه معاشرت برای اینکه عاشق و معشوقا اینطوری ان هلن یه خورده بهش نگاه میکنه بعد پوسخند میزنه و همزمان به سمت در میره اونجا یه بار دیگه برمیگرده به بیلی نگاه میکنه میخنده و بیرون میره بیلی به زمین خیره مونده. کیت از اتاق پشتی آروم میاد تو. میگه سب کن یه دختر خوب سر راهت پیداشه بیلی. یکی که اصلا براش مهم نباشه تو چه شکلی؟ کسی که فقط به قلبت نگاه کنه. بیلی میگه چقدر دیگه باید سب کنم عمه؟ بعد بیلی بلند میشه و خسخس خس کنان به اتاق پشتی میره. کیت شروع میکنه به جمع و جور کردن وسایل و بستن مغازه. آیلی نمیاد کمکش. هر از گاهی صدای صرفه بیلی از دور شنیده میشه. آیلی میپرسه که چرا بیلی دمغه. کیت قضیه رو تعریف میکنه. آیلی میگه که بیلی باید یکی پایین از هلنو پیدا کنه. کسی که هم زشت باشه هم خین کیت میگه بیلی باید یه سری به آنترین بزنه. اونجا کارش را میافته. آیلین میگه نبودی ببینین جانی پاتین چه داستانی از خودش درآورد که پدر و مادر بیلی به دستاشون گونی سنگ بستن و خودشونو غرق کردن تا با پول بیمه‌شون زندگی بیلی رو نجات بدن. کیت میگه وا چه حرفا اونم وقتی اونا بیلی بیچاره رو به یه گونی پر از سنگ بسته بودن و اگه جانی پاتین نزاده بود با آب تا نجاتش بده الان بیلی ته دریا بود. آیلین میگه بعدم که جانی صد پوند از مادرش دزدید که پول دوا درمون و بیمارستان بیلی رو بده و باید یه روز این حقیقت رو بهش بگم. هر دو دست توی دست هم لبخند میزنن و به اتاق پشتی میرن بعد بیلی فین فین کنان وارد میشه چشماش سرخ و گونه هاش اشگالود آروم گونی رو از روی دیوار بر میداره توش پر از گوتی های نخود سبز میکنه بعد بنداشو و یکی یکی از دستاش می بنده لحظه ای مکس می و بعد لخ لخ کنان سمت در می کسی به در ضربه میزنه بلی بیلی صورتشو رو پاک می و گونی رو مخفی می بعد درو در باز می کنه هلن میگه خیلی خوب باهات میام قدم بزنم ولی جایی که هیچ خریمارو نبینه وقتی هم هوا تاریک شد تازه نه خبری از ماچ هست نه دستمالی. چون نمیخوام برینی به آب روی کوفتی. بیلی میگه که باش. خیلی خوشحال میشه. بیلی موافقت میکنه میگه فردا خوبه؟ هلن میگه که اصلا مگه فردا تولد کوفتی بارتلی نیست؟ بیلی میپرسه که کادو چی براش گرفته؟ هلن میگه یه چیزی گرفتم ولی هیچجوره نمیفهمم چرا همچین غلطی کردم. اون دیگه مطلقا ور زدن کوفتیشو سر این قضیه تموم نمیکنه. دقل نتی وقتی که یه مشت حسابی نکوبوندم تو صورت کوفتیش. ولی مگه من واسه این علاق یه تلسکوپ کوفتی نگرفتم بیلی میگه حسابی لطف کردی هل میگه فکر کنم حالا که سنم رفته بالا باید لطیف تر باشم. تا هم اینطور فکر میکنی؟ بیلی میگه که اونم همینطور فکر میکنه. هل میگه این به نظرت لطیفه و محکم میزنه تو صورت بیلی. بیلی از درد فریاد میکشه. بیلی میگه آخ, آخ آخ آخ نه به نظرم نیست. علم میگه خوبه. پس فردا واسه قدم زدن کوفتیمون میبینمه. بیلی رو کوتاه و مختصر میبوسه و چشمک میزنه و میره. بیلی لحظهی مپوته و دیاد گونی میفت. بازش میکنه و قوتی های یعنی نخود سبز رو دوباره توی قفصه ها میذاره. گونی رو روی دیوار آویزون میکنه و لحظهای بهش دست میکشه لخ, لخ کنان به سمت اتاق پشتی میره اما دم درک میرسه سخت سرفه میکنه ای که وقتی تموم میشه دستش پر از خونه لبخندش که به خاطر هلن بود رنگ میوازه نورو کم میکنه و بعد وارد اتاق پشتی میشه. چیزی که شنیدید قسمت 17 پادکست علف نمایشنامه چلاق نوشته مارتین مکدونا بود. چلاق آینیشمان یکی از متفاوت ترین کارهای مکدونا است. توش خبری از خونخون ریزی و خوشونت های همیشگی مکدونا نیست و فضای نسبتا روشنتری داره. هرچند پایان تلخ و شیرین نمایشنامه اجازه نمیده خیلی هم از فضای کمدی سیاه مکدونا دور بشه. هیچ کدوم از کاراکترهای نمایشنامه هم بی نیستند نیستن و هم واقعی به نظر میان و دوست داشتنی هستن و با توجه به تعداد زیاد کاراکترها خوب پرداخت شدن و امقه خوبی دارند. بیلی که به خاطر نقص فیزیکی مادرزادیش همیشه مسخره شده و از بالا به پایین بهش نگاه شده در واقع آدم فهمیده و باهوشیه. بی بی بابی با اینکه زمخت به نظر میاد تنها کسیه که واقعا به بیلی چشم میگه انسان نگاه میکنه. و جانی پین مایک با اینکه خیلی رومخ و فضوله دل مهربونی داره و با پنهون کردن حقیقت تلخ سعی میکنه از بیلی محافظت کنه. و خب قبلا هم از قرخ شدن نجاتش داده. و حتی از مادر خودش پول ددیدده که خرج درمان بیلی بکنه. چلاغ آینیشمان به قهرمانش که همیشه ضعیف نگه داشته شده، اجازه میده امید داشته باشه و حتی رویاش رو که رهایی از این فضای خسته کننده، ناراحت کننده و مسمومه تجربه کنه. هرچند باز هم محکوم به شکست و بازگشتنه. و حتی اجازه میده این نامه قهرمانش دختر مورد علاقه‌اش رو به دست بیاره. اما درست در لحظه شادی با اون سرفه خونالوت بهش یادآوری میکنه که نه این قهرمان محکوم به مرگ. خب امیدوارم از شنیدن نمایشنامه چلاق آیینیشمان اثر مارتین مکدونا لذت برده باشید. اینکه چرا پادکست الف خیلی وقت منتشر نشده یا اینکه میدنایت کس دیر به دیر منتشر میشه به خاطر منه. من درگیر درس و کنکور شدم و این درگیری با عقب افتادن زمان کنکور بیشتر هم شد. به خاطر همین اپیزودهای ما دارن با تأخیر منتشر میشن. اما خبر خوب اینه که چیزی نمونده و به زودی به روال حدیب برمی و در پادکست علف سعی می کنیم هر ماه یک اپیزود داشته باشیم و در میتنایت کست هم فاصله پخش اپیزود ها رو کمتر می‌کنیم. می کنیم. خیلی ممنون که تا اینجا پادکست علف رو شنیدید از فاطمه عبالغاسمی برای نوشتن متن طولانی این قسمت از مهدیست برای ویرایش متن و از شکیبا برای تدوین این اپیزود خیلی خیلی ممنونم شبکه های اجتماعی پادکست علف رو دنبال کنید و اگر نظری درباره این اپیزود یا خود پادکست داشتید برای من بنویسید من مهدی هستم شما قسمت 17 همه پادکست علف رو در تیر ماه 1400 شنیدید تا قسمت بعدی این نقش ماند از قلمت یادگار عمر میدنایت کست